رادیو قبرس تقدیم می کنند. درمان شپن هاور با صدای نوشین ستاری رنج‌های عظیم موجب می رنج‌های رنج های کوچکتر دیگر احساس نشوند و برعکس در نبود رنج های عظیم حتی کوچکترین دردسرها و مزاحمتها مایه عذابند. قبرس. فصل هفته در آغاز جلسه بعد همه چشم ها بربانی بود. او با صدای ملایم و لحنی مردد شروع به صحبت کرد. در واقع فکر خوبی نبود که خودم رو در دستور این جلسه قرار بدم. چون همه هفته داشتم فکر میکردم چی بگم. حرفم بارها و بارها تمرین کردم. با اینکه میدونم قرار نیست این جای سخنرانی از پیش تعین شده بکنم. جولیوس همیشه گفته اگه قرار گروه کاری از پیش ببره باید جلساتش فل بداهه و خودجوش باشه. درست میگم؟ بانی نگاهی به جولیوس انداخت. جولیوس سری به تایید تکان داد. بانی سعی اون سخنرانی از پیش شده رو کنار بذاری. این جوری. چشمانت رو ببند و تصور کن که نسخه آماده شده رو برمی‌داری. جلو جلوی خودت می گیری. از وسط نصف می کنی و نصفش رو هم نصف می کنی. حالا توی سبد زباله می دازیش. باشه؟ بانی با چشمان بسته سرتکان داد. حالا با کلماتی تازه از زشتی و زیبایی برامون بگو. از خودتو ربکا و پم بگو. بانی که هنوز داشت سرتکان میداد داد چشمانش راهسته گشود و شروع کرد. همتون منو یادتونه، مطمئنم. من همون دختر کوچولوی چاغ همکلاسیتونم. گوشتالو و دست و پا چلوفتی با موهای فرفری. همونی که زنگ ورزش بدبخت بود. کمتر پیش میومد روزای روزهای ولنتاین هدیه بگیره. خیلی گریه میکرد. هیچوقت هیچ وقت دوست صمیمی نداشت. همیشه تنها به خونه میرفت. رفت. هیچ وقت به مهمونی و رقص دعوت نمیشد. اونقدر وحشت زده بود که هیچ وقت سر کلاس دست بلند نمیکرد. و اینکه خیلی باهوش بود و همه جوابای درستو میدونست. ربکا که اینجاست ایزومر من بود. تونی که چنان لم داده بود که تقریبا موازی صندلیش شده بود، پرسید: "چیچی تو بود؟" بانی پاسخ داد: "ایزومر، یعنی مثل تصویر آینه ای." فیلیپ گفت: "ایزومر به دو ترکیب شیمیایی گفته میشه که اجزای سازندهشون از لحاظ نسبت یکیه ولی خصوصیات متفاوت دارن چون نحوه آرایش اتمهاشون متفاوته." بانی گفت: ممنون فیلیپ، شاید کلمه خودنمایانه ای بکار بردم. ولی تونی، همینجا بگم تحسینت می‌کنم وقتی می‌بینم هر وقت چیزی و نمیفهمی، نمی‌فهمی بلافاصله نشون میدی و همیشه دنبال رفع اشکالی. اون جلسه چند ماهی پیش که از شرمندگیت بابت میزان تحصیلات و حرفه کارگریت گفتی، این اجازه رو به من داد که بتونم از مسائل خودم حرف بزنم. خب برگردم به روزای مدرسه ربکا درست نقطه مقابل من بود. از هر جهت همه تون تأیید میکنید میموردم برای اینکه دوستی مثل ربکا داشته باشم خودمون میکشتم که یه ربکا باشم این چیزیه که هنوز هم در من در جریانه در این یکی دو هفته غرق خاطرات وحشتناک که شدم جولیوس گفت اون دختر کجولی چاق خیلی وقت پیش مدرسه میرفت چی باعث شده حالا برگرده خب این بخش سخت ماجر است نمیخوام ربکا از دستم بشه جولیوس اشاره کرد بهتر مستقیم با خودش حرف بزنی بانی. بانی گفت باشه و رو کرد به ربکا. میخوام چیزی بهت بگم ولی نمیخوام از دستم عصبانی بشی. ربکا در حالی که همه توجهش را بر بانی متمرکز کرده بود گفت سر گوشم. وقتی میبینم اینجا در گروه با مرد و حرف میزنی حس میکنم کاملا درموندم. همه اون احساسات بده گذشته بیرون میخزند. چاقوچه لگی، بی اهمیت بودن، نامحبوب بودن، از دور خارج بودن. فیلیپ به میان صحبت دوید نیچه جایی چیزی گفته به این معنا که وقتی نیمه شب با ترس از خواب می پریم، دشمنانی که مدتها پیش شکست داده این بر می گردند و به سراغمان مان با نی بانی لبخند فراخی زد و به سوی فیلیپ برگشت. این یه هدیه از فیلیپ، یه هدیه دلچسب. نمیدونم چرا ولی این عقیده که دشمنانی که یک بار شکستشون دادم دوباره از جا بلند میشن حس بهتری بهم به میده ربکا صحبتش رو قطع کرد سب کن بانی میخوام برگردم به وصفه مردا لطفا توضیح بده توضیح بده لطفا مردمک های بانی گوشاش شد از نگاه خیره ربکا پرهیز کرد مسئله تو نیستی مسئله این نیست که کار تو اشتباهه مشکل از منه اشکال در پاسخ من به یه رفتار عادی زنانه است. چه رفتاری؟ از چی حرف میزنی؟ بانی نفس عمیقی کشید و گفت دل بری میکنی، به خودت میرسی. این چیزیه که به نظر من میاد. جلسه پیش نمیدونم چند بار گیره سرت رو برداشتی، موحات رو دورت ریختی، پریشونشون کردی، با انگشتات صافشون کردی، خیلی بیشتر از دفعات قبل. باید به ورود فیلیپ به گروه ربطی داشته باشه. ربکا پرسید، داری از چی حرف میزنی؟ تونی به میان صحبت برید به قول پیر فرزانه، جولیوس مقدس، سوالی که جوابشو میدونی سوال نیست. ربکا با چشمانی سرد گفت، تونی چرا نمیذاری بانی خودش حرف بزنه؟ تونی ناراحت نشد، موضوع روشنه. فیلیپ وارد گروه میشه و تو عوض میشی. تبدیل میشی به یه زنه، اصطلاح درستش چیه؟ میخوای به چشمش بیای؟ درست فهمیدم بانی؟ بانی سری تکان داد. ربکا دست در کیفش کرد و دستمالی بیرون کشید و به چشمانش مانید. جوری که ریملش دست نخورد. این واقعا یه توهینه. بانی ملتمسانه گفت این دقیقا همون جاییه که نمیخوام این بحث بره. تکرار میکنم این مسئله تو نیست ربکا. تو هیچ کار اشتباهی انجام نمیدی. این برام قابل قبول نیست. اینکه که همینجوری گذری تهمت ناجوری راجع به رفتارم بزنی بعدم به این بگی این مسئله من نیست از زنندگیش کم نمیکنه. تونی پرسید گذری؟ فیلیپ به میان صحبت دوید. گذری یعنی در حال گذشتن. یک اصطلاح رایج در شترنجه. تونی گفت فیلیپ تو خیلی خودنمایی میدونستی؟ فیلیپ که از رویارویی تونی اصلا متأثر نشده بود گفت تو سؤالی مطرح کردی و من جواب دادم مگر اینکه سوال سؤالت سؤال نباشه تونی گفت اوه گیرم انداختی بقیه گروه رو از نظر گذرند باید کمتر حرف بزنم حس میکنم تک افتادم ببینم واقعا کلمات قلوم به اینجا رد و بدل میشه یا من اینجوری فکر میکنم نکنه اومدن فیلیپ به اینجا چشم بقیه رو هم گرفته فقط ربکا نیست جوریوس با رایشترین و موثرترین راهبرد یک روان درمانگر یعنی انتقال تمرکز از محتوا به فرایند مداخله کرد که به منوی دور شدن از واژهای های برزبان آمده و پرداختن به ماهیت رابطه میان افراد در حال تعامل است امروز داره اتفاقات زیادی اینجا میفته شاید بهتر باشه یک لحظه بیایستیم و ببینیم چه خبره اول این سوال را از همه میکنم به نظر شما در رابطه بین بانی و ربکا چه اتفاقی داره میفته استوارت که همیشه نخستین کسی بود که به سوالت مطرح شده از طرف جولیوس پاسخ میداد گفت سوال سختیه. با لحنی تخصصی طبیبانه اضافه کرد من واقعا نمیتونم بگم که بانی یک دستور جلسه داره یا دوتا. بانی پرسید یعنی چی؟ یعنی دستور جلسه چیه؟ دلت میخواد درباره مسائل مربوط به مردا و رقابتت با زنا حرف بزنی یا دلت میخواد ربکا رو سر جاش بنشونی؟ گیل گفت من مسئله رو از هر دو دیدگاه میبینم هم میفهمم که چطور این موضوع خاطرات بدبانی رو زنده میکنه و هم میفهمم که چرا ربکا ناراحت شده منظورم اینه که شاید بی هوا رو مرتب کرده و شخصا فکر نمی کنم مسئله مهمی باشه استوارت گفت تو آدم مردمداری هستی گیل مثل همیشه سعی میکنی از هر دو طرف دلجویی کنی بخصوص اگه هر دو طرف خانوم باشن ولی میدونی اگه بخوای در درک دیدگاه زنانه عمیق بشی دیگه نمیتونی با صدای خودت صحبت کنی این همون چیزیه که هفته پیش فیلیپ بهت گفت ربکا گفت من از این نظراتی که بوی تبعیض جنسیتی میده خوشم نمیاد استوات بیتارو یه دکتر بهتر باید بدونه که صحبت از دیدگاه زنانه چقدر مسخره است بانی داستانش رو بالا برد و با آنها یک تی ساخت باید همینجا تایم اوت بدم. دیگه نمیتونم ادامه بدم. این موضوع مهمیه ولی سورئاله. من نمیتونم ادامهش بدم. چطور میتونیم کارمون رو به روال معمول ادامه بدیم وقتی جولیوس همین هفته پیش اعلام کرده داره میمیره؟ تقصیر منه. اصلا نباید امروز این بحثو و باره خودم و ربکا شروع میکردم. زیادی پیش پا افتاده است. همه چیز در مقایسه پیش پا افتاده به نظر میاد. نگاه همه پایین بود. بانی سکوت را شکست. میخوام زیر حرفم بزنم. در واقع باید این جلسه رو با تعریف یه رویا یه کابوس شروع میکردم که بعد از جلسه پیش دیدم. فکر میکنم تو رو هم شامل میشه جولیوس. جولیوس با اشتیاق گفت بجامب. شب بود. توی ایستگاه قطار تاریک بودم. جولیوس به میان صحبت دوید. بانی سعی کن از فعل زمان حال استفاده کنی. بعد از این همه وقت باید خودم میدونستم. باشه. شب سعی میکنم سوار قطاری بشم که شروع به حرکت کرده. تونتر راه میرم که بهش برسم. واگن رستوران رو میبینم که پر از افراد خوش لباس در حال خوردن و نوشیدن. مطمئن نیستم از کجا باید سوار بشم. حالا حرکت قطار سریعتر شده و های آخری تر و ترند و پنجره هاشون هم بازه. آخرین واگن که واگن کارمندای قطاره خیلی در بوداگونه. دور از هم و میبینم که از من دور میشه و صدای سوت قطار رو میشنوم که اونقدر بلنده که بیدارم میکنه و میبینم ساعت چهار صبحه. قلبم به شدت میزد و خیس عرق بودم و دیگه اون شب خوابم نبرد. جولیوس پرسید هنوزم میتونی اون قطار رو ببینی؟ به فصو داره توی مسیرش دور میزنه. رویا هنوزم برام ترسناک و عجیبه. تونی گفت میدونین من چی فکر میکنم؟ به نظر من قطار این گروه و بیماری جولیوس اون از هم میپاشونه. استوارت گفت درسته قطار گروهه. تو رو به جایی میرسونه و در طول مسیر هم تقضیت میکنه. میدونین منظورم مردمیان که تو واگن رستوران بودن؟ ربکا پرسید آره ولی چرا نتونستی سوارشی؟ دویدی؟ نه دویدم. اینگار میدونستم که نمیتونم سوار بشم. ربکا گفت عجیبه. مثل این میمونه که دلت میخواسته شی و همزمان دلت نمیخواسته. مطمئنم که سعی زیادی برای سوار شدن نکردم. گیل پرسید. شاید بیش از اون ترسیده بودی که بتونی سوارشی. جولیوس گفت. بهتون گفته بودم عاشق شدم. ناگهان سکوتی بر گروه حک فرما شد. سکوت کامل. جولیوز نگاهش را بازیگوشانه بر چهره های و را نگران گرداند. بله، عاشق این گروه هم. به خصوص وقتی مثل امروز حسابی کار میکنه. شیوه کار کردنتون بر روی این رویا العاده است. شما هم مرکید. بذارین منم حدثم و بگم. بانی، نمیدونم. شاید این قطار نمادی از من باشه. قطار بوی وحشت و تاریکی میده. ولی همونطور که استوارد گفت تقصیه است این کاریه که من تلاش میکنم انجام بدم. ولی تو ازش ترسیدی، همونطور که لابد از من یا اتفاقی که قراره برای من بیفته ترسیدی، و اون واگن آخری، واگن درب و داغون کارمندا، نمیتونه نمادی یا پیشبینی بدتر شدن وضع من باشه؟ بانی دستمالی از جابه دستمان کاغذی وسط اتاق برداشت، چشمانش رو پاک کرد و منمن کنان گفت، من، من نمیدونم چه جوابی بدم، همه چیز سرحاله، جولیوس تو منو مبهوت میکنی، وقتی راجع به مردن اینطور طور و واقعی حرف میزنی، منو از پا در میاری جولیوس گفت، هممون در حال مرگیم بانی، فرقش اینه که من مشخصات مرگم و بیشتر از بقیه شما میدونم منظور منم همینه جولیوس، من همیشه آشق لحن شوخ تو بودم، ولی حالا تو این موقعیت یه جور پرهیز از مسئله است یادمه یه بار وقتی تونی داشت دوره زندان آخر هفتش رو میگذرون و ما دربارش حرف نمیزدیم گفتی اگر مسئله بزرگی در گروه نادیده گرفته بشه هیچ حرف مهم دیگه هم زده نمیشه ریبکا گفت دو نکته میخوام بگم اول اینکه بانی ما همین الان داشتیم درباره یه چیز مهم می صحبت میکردیم دیگه اینکه خدای من شما انتظار دارین جولیوس چیکار کنه؟ اون داره دربارش حرف میزنه دیگه. تونی گفت، در واقع هرسش هم گرفته بود که چرا ما موضوع از فیلیپ شنیدیم و نه از خودش. استوارت گفت، موافقم، تو از اون چی میخوای بانی؟ داره ادارهش میکنه. گفت گروه حمایتی خودشو داره که برای کنار اومدن با موضوع کشمکش میکنه. جولیو سکوتش را شکست، دیگر کافی بود. میدونین، من قدر این همه حمایت شما رو میدونم، ولی وقتی اینقدر شدید میشه نگرانم میکنه. شاید زیادی خون سرد و بیخیالم ولی میدونید لوگریک که تصمیم گرفت بازنشسته بشه؟ وقتی در یکی از بازی ها همه اعضای تیم برای گرفتن یه توپ زمینی معمولی و شروع کردن مسابقه زیادی تحسینش کردن. شاید فکر کردید بیش از اون شکنندم که بتونم از خودم حرف بزنم. استوارت گفت قراره با این بحث به کجا برسیم؟ اول بذار بهت بگم بانی تو دل و جرعت زیادی از خودت نشون دادی که پریدی و از چیزایی گفتی که سخت میشه ازشون حرف زد و دیگه اینکه کاملا حق داری من امروز جمر رو کمی نه کلی تشویق کردم که از کار استفاده کنه میخوام یه سخنرانی کوتاه بکنم و همه چیز رو براتون روشن کنم اخیرا بیخوابی های شبانه زیادی داشتم و زمان زیادی رو به فکر کردن درباره همه چیز گذروندم از جمله این که با بیمارانم و با این گروه چه کنم. تا حالا چنین تجربه ای نداشتم. هیچ کس پایان خودشو از قبل تمرین نمیکنه. این اتفاق فقط یه بار میفته. هیچ درس نامی درباره این موقعیت ننوشته. بنابراین همه چیز فلبدا هست. من با تصمیمگیری درباره زمانی که برام باقی مونده مواجهم. چه هایی دارم؟ درمان همه بیمارانم رو متوقف کنم و به این گروه هم خاتمه بدم. برای این کار آماده نیستم. هنوز دستکم یه سال خوب در پیش رو دارم و کارم ارزش زیادی برام داره. و از اون بهره زیادی میبرم. کنارکزشتن هرفم یعنی با خودم مثل یه آدم ترد شده و منفور رفتار کنم. من بیماران علاج زیادی دیدم که برام گفتن انزوایی که بیماری بهشون تحمیل کرده بدترین و سختترین بخش بیماریه. و این تنها یک انزوای دو جانب است. از یک طرف فرد بیمار خودشو منزوی میکنه چون نمیخواد دیگران رو هم با خودش به یهس و نامیدی بکشونه. و باید این واقعیت رو بهتون بگم که این یکی از دقدقه های منم هست. و از طرف دیگه دیگران هم از او دوری می چون نمی دونن چطور باید با اون حرف بزنن یا اینکه اصلا دلشون نمی با مرگ سر و کار داشته باشن. پس فاصله گرفتن از شما گذینه خوبی برای من نیست و فکر نمی کنم برای شما هم انتخاب خوبی باشه. من بیماران سعبال علاج زیادی رو دیدم که متحول شدن. عاقلتر و تر عمل کردند و چیزای زیادی برای آموختن به بقیه داشتند فکر می کنم این اتفاقیه که تازه داره در من میافته و متقاعد شدم که در چند ماه آینده چیزای زیادی برای پیشکش کردن به شما خواهم داشت ولی اگه قراره به کار کردن با هم ادامه بدیم ممکن مجبور بشین با استراپ زیادی دست و پنجه نرم کنید نه فقط با مرگ غروب الوقع من که شاید با مرگ خودتون هم رو در رو بشین سخنرانیم تمام تموم شد شاید لازم باشه همتون در این مورد فکر و ببینین میخواین چی کار کنین بانی گفت من نیازی به فکر کردن ندارم، آشق این گروه و تو و همه اعضایشم و میخوام تا زمانی که ممکن باشه به این کار ادامه بدم. وقتی اعضا صحبتهای بانی را تصدیق و تکرار کردن، جولیوس گفت از رأی اعتمادتون ممنونم، ولی قوانین گروه درمانی بر نیروی مرعوب کننده فشار گروه تاکید داره. مخالفت با اتفاق نظر گروه در جمع خیلی سخته. یه اظم فوق انسانی لازمه تا یکی از شما بتونه امروز بگه متاسفم جولیوس ولی این از تحمل من خارجه ترجیح میدم یه درمانگر سالم پیدا کنم کسی که بنیه کافی برای مراقبت از من داشته باشه به همین دلیل امروز هیچ قول و تعهدی رد و بدل نمیشه بذارین دستمون باز باشه و به ارزیابی کارمون ادامه بدیم و ببینیم هرکس در چند هفته آینده چه حسی خواهد داشت یه خطر بزرگ که بانی هم امروز بهش اشاره کرد اینه که کم کم حس کنید مشکلاتتون زیادی جزئی و کم اهمیت و ارزش بحث کردن نداره. پس باید فکر کنیم و بهترین راه و برای اینکه شما به کار بر روی مسائل خودتون ادامه بدین پیدا کنیم. استوارت گفت من فکر میکنم تو با مطلعه کردن و در جریان قرار دادن مداوم ما داری دقیقا همین کارو میکنی. باشه ممنون. این امیدوارم میکنه حالا برگردیم به شما. سکوتی، طولانی خب شاید هنوز راحت نیستید بذارید اینو امتحان کنم اوستوارت تو یا هر کدومتون میدونید دستور جلسمون رو مرور کنی چه چیزایی روی میز داریم مسائل ناتمام امروزمون اوستوارت مورخ غیررسمی گروه بود از چنان حافظه نیرومندی برخوردار بود که جولیوس همیشه میتوانست برای یادآوری وقایع گذشته یا حال گروه روی او حساب کند می‌گوشید بیش از اندازه از او استفاده نکند چون استوارت به گروه آمده بود تا برقراری ارتباط با دیگران را یاد بگیرد نه اینکه ضبط صوت گروه باشد و وقایع را ثبت کند استوارت در برقراری ارتباط با کودکان بیمار فوق‌العاده بود ولی هر وقت از فضای حرفه‌ایش در نقش متخصص کودکان بیرون می آمد، از لحاظ اجتماعی کم می‌آورد حتی هنگام حضور در گروه هم اغلب نشانی از تجهیزات حرفه‌ای اش را میشد در جیب پیراهنش پیدا کرد. دستگاه معاینه گلو، چرا قوه جیبی، چوب بستنی، نمونه دارو با فشار مداوم گروه در طول سال گذشته پیشرفت زیادی کرده بود و خودش آن را پروژه آدم شدن مینامید. ولی هنوز حساسیت های بین فردی اش چنان روشن یافته بود که روایتش از وقایع گروه کاملا بی‌ملاحظه و رک و راست بود. پیش از آنکه پاسخ دهد به پشتی صندلیش تکیه داد و چشمانش را بست. خب بذنید ببینم. با بانی و تمایلاتش به صحبت درباره کودکیش شروع کردیم. بانی منتقد پروپاگورس قرص استوارد بود. به همین دلیل پیش از آن که ادامه دهد نگاهی به او انداخت تا تعییدش را بگیرد. نه کاملا استوارد. داده ها درسته ولی طرز بیانت خیلی غلطه. یه جور لودگی تو لحنت هست. من فقط میخواستم یه قصه بگم و سرگرمتون کنم. خاطرات دردناکی زیادی در کودکی من هست که همین حالا هم وقتی به یاد اونا میفتم ذهنم و درگیر میکنن. متوجه تفاوت شدی؟ مطمئن نیستم متوجه شده باشم من نگفتم برای تفریح این کارو می این دقیقا همون چیزیه که زنم هم از شکایت داره ولی فعلا ادامه میدم. بعد مسئله عصبانیت ربکا بود که حس کرد بهش توهین شده. چون بانی گفته بود دلبری میکنه تا فیلیپ رو تحت تاثیر قرار بده. ربکا دستش رو پیشانیاش کوبید و زیر لب غرید لعنتی. ولی استوارت حرکتش رو نادیده گرفت و ادامه داد. بعد نوبت تونی بود که حس کنه ما داریم اصطلاعات پیچیده به کار تا فیلیپ رو تحت تاثیر قرار بدیم. بعد هم گفت که فیلیپ خیلی خود نماست و پاسخ تندوتیز فیلیپ به تونی. و بعد اثر نظر من درباره گیل که اونقدر سعی میکنه زنا رو از خودش نرنجونه که دیگه خودش نیست. بذاریم ببینم چیز دیگه ای هم بود یا نه. اوسوارت همه اتاق رو از نظر گذران. خب بعد نوبت فیلیپه. نه به دلیل چیزی که گفت، بلکه برای چیزایی که نگفت. ما زیاد درباره فیلیپ حرف نمیزنیم. انگار که یه جور تابوه. اگه دقت کنی متوجه میشیم که حتی از حرف نزدن درباره هم حرف نمیزنیم. و البته مسئله جولیوس هم بود ولی روش کار کردیم فقط این بوزو باقی مونده که بانی مثل همیشه زیادی برای جولیوس نگرانه و نگاه حمایت کننده داره در واقع بخش مربوط به جولیوس این جلسه با رویای بانی شروع شد ربکا گفت عالی بود استوارت و, و تقریبا کامل فقط یه چیزو جا انداختی چی خودتو این واقعیت که دوباره به دوربین گروه تبدیل شدی و پیش از اون که درش مایه بذاری ازش عکس برداری میکنی. گروه اغلب درباره شیوه غیر شخصی در سهم شدن در مسائل با او درگیر میشد. چند ماه پیش رویایی را توصیف کرده بود که در آن دخترش در شن روان قدم گذاشته بود و او نتوانسته بود نجاتش دهد چون وقت زیادی را صرف بیرون آوردن دوربین از کوله پشتیش و عکاسی از صحنه کرده بود. همان موقع بود که ربکا لقب دوربین گروه را به او داد. حق با تو ربکا. حالا دوربینم و کنار میذارم و میگم منم کاملا با بانی موافقم. تو زن زیبایی هستی. ولی این برات خبر جدیدی نیست. خودت خوب میدونی. و میدونی که منم اینطور فکر میکنم. و البته که برای فیلیپ خود نماییم کردی موهاتو باز میکردی و میبستی و بهشون دست میکشیدی. این کاملا واضح بود من چه احساسی در این باره داشتم؟ یکم حسودیم شد. نه، خیلی حسودیم شد. تو هیچ وقت برای من خود نکردی. هیچ کس تو حالا چنین کاری برای من نکرده. ربکا پاسخ داد. این حرفا باعث میشه حس کنم تو زندونم. متنفرم از اینکه مردا بخوان اینجوری کنترلم کنند. انگار هر حرکتم زیر بینه. ربکا هر کلمه را با مکس بر زبان آورد و این حاکی از شکنندگی و تب و تابی بود که مدتهای مدید پنهان مانده بود جولیوس نخستین برداشتهایش را نسبت به ربکا به یاد آورد یک دهه قبل بسیار بیشتر از آن که وارد گروه شود به مدت یک سال تحت درمان فردی جولیوس بود موجودی ضریف با اندامی رنا و دلربا و چشمانی بسیار درشت و چه کسی میتوانست اظهار نظر آغازینش را در درمان فراموش کند؟ از سی سالگی به این طرف متوجه شدم، وقتی وارد رستوران ها میشوم، هیچ کس دست از خوردن بر نمیدارد تا به من نگاه کند. دیگر چیزی از من باقی نمانده. دو رهنمو جولیوس را در کار فردی و گروهی با او هدایت کرده بود. اول اصرار فروید بر این که برقراری ارتباط درمانی درمانگر با یک زن زیبا باید به شیوه انسانی باشد و نباید از ارتباط درمانی زند و یا بیمار را در موقعیتی نامساعد قرار دهد صرفا به این دلیل که زیباست و باید تاوان زیباییش را بدهد. دوم مقاله بود با عنوان زن زیبای توخالی که در دوران دانشجویی خوانده بود. و در آن به این نکته اشاره شده بود که یک زن واقعا زیبا آنقدر صرفا برای ظاهرش تحویل گرفته می شود و پاداش می گیرد که از پرورش سایر های وجودش غافل میماند. اعتماد به نفس و احساس موفقیتش بسیار سطحی است و از عمق پوستش فراتر نمی رود. در نتیجه به محض رنگ باختن و ظاهل شدن زیبایی، حس می کند دیگر چیزی برای پیشکش به دیگران ندارد. نه هنر جالب بودن را در خود پرورش داده و نه هنر جلب توجه دیگران را استوارت گفت وقتی مشاهده میکنم اسمم رو میذارن دوربین و وقتی از احساسم میگم میشم یه مرد کنترل کننده حرف زدن از احساسات آدمو تو دردسر میندازه تونی گفت من نفهمیدم رباکاغذی چیه چرا حرفای عجیب غریب میزنی استوارت همون چیزیو گفت که خودت همیشه میگفتی تا حالا چند بار گفتی که میدونی چطور اشوه بیایی و این اصلا تو ذاتته یادم می گفتی دوره کالج و حقوق رو آسون گذروندی چون با همین کارا سر مردا رو شیره می جوری حرف میزنی که انگار من یه فاحشه هم؟ ناگهان هم به طرف فیلیپ برگشت این حرفا باعث نمیشه فکر کنی من یه بدکارم فیلیپ که توجهش از نگاه به نقطه مورد علاقهاش در سخت منحرف نشده بود به سرعت پاسخ داد شوبنهاور گفته یک زن خیلی جذاب مثل یک مرد خیلی باهوش سرنوشتی جز تنها زندگی کردن ندارد چون دیگران از حسادت کور میشوند و علاقهای به فردی که سرآمد آنها باشد ندارند به همین دلیل این افراد هرگز دوست صمیمی همجنس ندارند بانی گفت این در مورد همه صدق نمیکنه. دارم به پم عضو قایب گروه فکر میکنم که اونم خوشگله ولی کلی دوست سمیمی زن داره تونی گفت فیلیپ منظورت اینه که برای محبوب بودن باید یا خنگ باشی یا زشت دقیقا. و آدم عاقل زندگیش رو صرف کسب محبوبیت نمیکنه. این یه امید واهیه. محبوبیت به معنی درست بودن یا خوب بودن نیست. برعکس آدم همطراز بقیه و در نتیجه خرفت می کنه. خیلی بهتره که در درون خودمون دنبال ارزش و هدف باشیم. تو پرسید و عرضش ها و اهداف تو چیه؟ اگر هم فیلیپ متوجه توندی و تلخکامی سوال تونی شد، نشانه ای بروز نداد و رک و راست پاسخ داد. من هم مثل شوپنهاور میخوام تا جایی که میشه خواسته کمتری داشته باشم و بیشتر یاد بگیرم تونی که معلوم بود نمیداند چه جوابی باید دهد سری تکاندت ربکا وارد گفتگو شد فیلیپ چیزی که تو یا شوپنهاور درباره دوستی گفتی در مورد من صدق میکنه حقیقت اینه که دوستان زن خیلی کمی داشتم ولی دو نفر که علایق و توانایی های مشابه دارن چی فکر نمیکنی دوستی بینشون امکان پذیره پیش از آنکه فیلیپ بتواند پاسخ دهد، جولیوس تذکر داد وقت کمی باقی مونده. میخوام ببینم تک تک شما درباره 15 پانزده دقیقه آخر جلسه چه احساسی دارید؟ چطور کار کردیم؟ گیل گفت به سمت هدف پیش نرفتیم، گمش کردیم. چیز مبهمی اینجا جریان داره. ربکا منو جذب کرد. تونی گفت نه، کلمون رو زیادی شلوغ کردیم. استوارت گفت موافقم. بانی گفت خب من حالم اصلا خوش نیست. کم مونده منفجر بشم یا داد بزنم یا ناگهان برخواست کیف و کتش را برداشت و از اتاق بیرون رفت. یک لحظه بعد گیل از جا پرید و از اتاق بیرون دوید تا او را برگرداند. گروه در سکوتی ناراحت کننده فرو رفت و به صدای پایی که باز میگشت گوش میداد. کمی بعد گیل برگشت و بعد از آنکه نشست گفت حالش خوبه گفت متاسفه ولی مجبور بوده بره بیرون تا سبک بشه. هفته بعد دربارش حرف میزنه. ربکا در حالی که در کیفش را باز میکرد و عینک آفتابی و کلید اتومبیلش را بیرون می آورد گفت چه خبره؟ از اینجور رفتارش متنفرم. واقعا زننده است. جولیوس پرسید: کسی در مورد این اتفاق حدسی داره؟ ربکا گفت فکر کنم پی ام تی باشه. تونی متوجه شد صورت فیلیپ به نشانهٔ سردرگمی در هم رفت و بلافاصله به میان صحبت دوید منظورش پیاماس بود سندرم پیش از قاعدگی. و وقتی فیلیپ سر تکان داد تونی دستانش رو مشت کرد و با دو شست رو به بالا گفت هی hey, هی hey, بالاخره منم یه چیزی به تو یاد دادم جولیوس گفت باید همینجا تمومش کنیم. ولی من حسی در مورد بانی دارم به خلاصه استوارت برمی گردم. یادتون میاد بانی جلسه رو با چی شروع کرد؟ صحبت از دختر بچه چاقوچله مدرسه و محبوب نبودنش و در رقابت با سایر دخترها به خصوص جذابها. خب فکر نمی این قضیه امروز دوباره تکرار شد؟ اون جلسه رو شروع کرد و خیلی زود گروه رهاش کرد و به ربکا چسبید. به عبارت دیگه دقیقا همان موضوعی که اون میخواست ازش حرف بزنه اینجا با رنگهای زنده ترسیم شد و هر کدوم ما بخشی از این نمایش رو بازی کردیم. دیگر هیچ چیز نمیتواند او را بترساند یا متأثر کند. همه آن هزاران رشته میل و اشتیاق که ما را به دنیا وصل می کند و با رنج مداوم به این سو آنسو میکشاند همه و همه را بریده است. لبخند میزند و با آرامش به خیالات گذرای این دنیا می نگرد. دنیایی که اکنون به بیعتنایی یک شطرنج باز در پایان بازی در برابر او ایستاده است. فصل هم در هند قسمت دوم چند روز بعد بود که پم ساعت سه صبح بیدار در بستر دراز کشیده و به تاریکی چشم دخته بود به خاطر دانشجویش مارجی امکانات وIP برایش تدارک دیده بودند و اتاق نیمه خصوصی در یک آلاچیق کوچک با یک دستشویی خصوصی جدا از دستشویی زنانه خوابگاه در اختیارش گذاشته بودند. با این حال آلاچیق مانع عبور صدا نبود و پم صدای تنفس 150 شاگرد دیگر ویپاسانا ها را میشنید. شنید سر و صدای ها، او را به گذشته و به اتاق خواب زیر شیروانی در خانه والدینش در بالتیمور برد جایی که بیدار دراز می و به طوفان ماه مارس که پنجره ها را به صدا در می آورد، گوش می سپرد. پم توانسته بود با سایر دشواری های آشرام کنار بیاید بیداری در ساعت چهار صبح، یک بعد غذای گیاهی و سرف جویانه، ساعتهای بی مراقبه، سکوت، مراسم پر انزباط، ولی بیخوابی داشت او را از پا میانداخت. انداخت. روند به خواب رفتن را کاملا فراموش کرده بود. قبلا چطور این کار را می کرد؟ به خود گفت نه، رفتن از اون است که نمی توان اراده کرد. باید بی اراده انجام شود. ناگهان خاطره دور فردی خوکه قهرمان یک سلسله کتاب کودکان که 25 سال به آن فکر نکرده بود در ذهنش زنده شد یک هزار پا که دیگر نمیتوانست راه برود چون هماهنگی پاهایش به هم خورده بود از فردی کارگاه ماهر کمک خواست بالاخره فردی مشکل را اینطور حل کرد که به هزار پا دستور داد بدون نگاه به پاهایش یا حتی فکر کردن به آنها راه برود راه این بود که خداگاهی را خاموش کند و به تدبیر بدن اجازه دهد کار را خود به دست گیرد. در مورد خواب هم همینجور بود. پمکوشی چیوه هایی را که در کارگاه برای پاک کردن زن و روبیدن همه افکار آمیخته بود به کار بگیرد. گونکا مرشدی بود چاق و چله با پوستی قهوهی، سختگیر و فوقلاده جدی که کارگاه را با این گفته آغاز کرده بود که ویپاسانا را آموزش خواهد داد ولی اول باید به شاگرد یاد دهد که چطور ذهنش را آرام کند در سه روز اول گونکا فقط آناپاساتی یا اندیشیدن به تنفس را آموزش داد و روزها طولانی بود به جز یک سخنرانی روزانه و پرسش و پاسخی کوتاه، تنها فعالیتی که از چهار صبح تا 9 و نیم شب انجام میشد، مراقبه نشسته بود. برای دستیابی به آگاهی کامل بر تنفس، گونگا شاگردان را تشویق می‌کرد روی هوایی که به درون می رود و هوایی که بیرون می‌آید کار کنند. می‌گفت: گوش کنید. به صدای نفسهایتان گوش کنید. به مدت زمان و دمای آنها دقت کنید. به سردی هوایی که به درون می رود و گرمای هوایی که بیرون می آید توجه کنید. مثل نگهبانی عمل کنید که مراقب دروازه است. همه ی حواستان را بر سراخهای بینیتان متمرکز کنید. درست بران نقطه کالب و شناختی که هوا به آن وارد و از آن خارج می شود. گونکا می گفت به تدریج نفستان نرم و نرمتر می شود تا جایی که انگار از میان می رود. ولی وقتی امیختر تمرکز کنید متوجه حضور زریف و نامحسوس آن می شفید. اگر همه رهنموت های مرا دقیق و مؤمنانه اجرا کنید اشاره ای به آسمان کرد و ادامه داد اگر شاگرد مستعدی باشید تمرین آنپاساتی ذهنتان را خاموش می کند بعد از همه موانع ناشی از اندیشیدن و آگاهی رها خواهید شد بیقراری، خشم، تردید، امیان جسمانی، خوابالودگی به وضعیتی حوشیار آسوده و شاد خواهید رسید. آرام کردن زن جام مقدس پن بود. دلیل این سفر طولانی به ایگاتپوری. در چند هفته گذشته ذهنش میدان جنگ بود و در تکاپویی بیامان میخواست خاطرات و خیال پردازی های پرهیاهو وسواسی و مزاحم مربوط به ایرل و جان را پاک کند. ایرل پزشک متخصص زنان او بود. او مردی فوقلاده ملایم و با محبت بود و پیگیری بعد از جراحیش بود. دو بار به خانه ای او تلفن زد و حالش را پرسید. بیشک پم همه داستان‌های مربوط به نابودی های پزشکی انسانی و متعهدانه را های اقراق‌آمیز تصور کرد و بعد چند روز دیرتر تلفن سوم حامل دعوت به ناهاری بود که در طول آن ارل با مهارت تمام گفتگو را از طب به خاستگاری کشند. در تلفن چهارم بود که پم ناچندان بیشق و زحمّت موافقت کرد او را در کنگره پزشکی نیو همراهی کند. دوران نامزدی آنها با سرعت بحتاوری گذشت. هیچ مردی تا آن زمان او را به این خوبی نشناخته بود. تا این حدمایی تسلیش نبود و با این زرافت به زیر و بم او آشنایی نداشت. با اینکه ال ارل ویژگی بسیار خوب زیادی داشت، زرنگ و خوشقیافه بود و به خود میرسید. که مقامی اسطوره‌ای و عظیمتر از حیات به او داده بود مبهوت از اینکه برگزیده شده بود و در صدر زنانی قرار گرفته بود که در طلب لمس شفابخش او مطبش را پر می‌کردند با همه وجود عاشق شد و چند هفته بعد موافقت کرد با او ازدواج کند زندگی مشترکشان در ابتدای کار عاشقانه بود ولی در نیمه های سال دوم واقعیت ازدواج با مردی 27 سال مسنتر از خود را نشان داد ارل به استراحت بیشتری نیاز داشت. بدنش 65 سالگی را نشان می‌داد و موهای سفید با وجود رنگ مو و فرمول یونانیش ارزنده می‌کردند. صدمه عضلات شانه ارل به تنیس یک شنبه هایشان خاتمه داد. وقتی قذروف خورده شده زانو اسکی را هم ناممکن کرد، ارل خانه‌اش را در کنار دریاچه تاهو برای فروش گذاشت، بیان که با او مشورت کند. شیلا دوست سمیمی و هم اتاقیش در دوران کالج که به او توصیه کرده بود با مرد مسند از خود ازدواج نکند حالا اصرار میکرد هویتش را حفظ کند و برای پیر شدن عجله به خرج ندهد. پم حس میکرد به سرعت به جلو رنده میشود. پیری ایرل از جوانی او تقضیه میکرد. هر شب با حداقل انرژی به خانه میامد تا مارتینیش را مزمازه کند و به تماشای تلویزیون بنشیند. و بدترین قسمتش این بود که اصلاً مطالعه نمیکرد. زمانی چقدر سلیس و چقدر مطمئن درباره ادبیات حرف میزد؟ چقدر علاقهاش به میدل و دانیل دروندا او را نزد پم محبوب کرده بود و چه تکان دهنده بود وقتی کمی بعد متوجه شد فرم را با محتوا اشتباه گرفته. نه تنها گفته های در زمینه ادبیات نکاتی از برکرد و حفظ شده بود بلکه مجموعه کتابهایش هم محدود و ثابت بود. این سختترین ضربه بود. چطور می توانست عاشق مردی باشد که مطالعه نمی کرد؟ او که عزیزترین و صمیمیترین دوستانش در برگ برگ نوشته های وولف، مرداک و باید خانه داشتند. و اینجا بود که جان یک دانشیار موسرخ در گروه او در دانشگاه با بقلی پر از کتاب، گردنی بلند و خوشترکیب و سیبکی برآمده وارد زندگیش شد. با این که انتظار میرفت رفت همه استادان زبان انگلیسی اهل کتاب باشند، او افراد زیادی را می شناخ که مطالعاتشان بنظرته از قرنی که در آن سر رشته داشتند فراتر میرفت و با رمان نو کاملا غریبه بودند. ولی جان همه چیز می‌خواند. سه سال پیش پن به واسطه دو کتاب تحسین برانگیز او از استخدام رسمی او حمایت کرده بود. دوستیشان در پاتوق‌های آشنای رمانتیک دانشگاهی جوانه زد. این دوستی ریشه دواندو در ماجرای جویهای دانشگاهی مشترک مثل تدریس گروهی بزرگان قرن 19 در برنامه درسی تمدن غربی یا شرکت در کلاس های یکدیگر به عنوان سخنران میهمان شکوفا شد. و بعد دلبستگی های ماندگاری در موزگیری در مشاجرات شورای دانشکده در زمینه فضای آموزشی، حقوق و مستمری و کشمکش های بیرحمانی کمیته ارتقا پدید آمد. چیزی نگذشته بود که این دو چنان به سلیقه یکدیگر اعتماد کردند که برای گرفتن پیشنهاد خواندن رمان یا شعر سراغ کس دیگری نمی‌رفتند و فضای ایمیلی میان آنان از عبارات ادبی فلسفی پرمغز نشاط می‌گرفت. هر دو از عباراتی که صرفت تزیینی یا بیغواره و ناشیانه بود دوری می کردند. به چیزی کمتر از آنچه زیبایی ایجادانگیز را با فرزانگی زمان همراه کرده باشد رضایت نمیدادند. هر چه پوشته کتاب‌های مشترکشان بلند و بلندتر می‌شد، رابطهشان هم به هماهنگی بیشتری می رسید. تحت تأثیر اندیشه‌های ژرف خاص یک نویسنده خاص قرار می گرفتند. با هم به بینش و ادراک های ناگهانی می رسیدند. خلاصه این دو استاد زبان انگلیسی عاشق شده بودند. تو زندگی مشترک خودت را رها کن و من هم مال خودم را رها می کنم. این جمله را چه کسی اول بر زبان آورد؟ هیچ کدام به یاد نمیآوردند؟ ولی ای در سال دوم تدریس گروهیشان به این پیمان عاشقانه پرخطر متحد شدند. پم آماده بود ولی جان که دو دختر خردسال داشت، طبعا زمان بیشتری میخواست. پم صبور بود. خدا را شکر که مردش جان مرد خوبی بود و برای کلنجار رفتن با مسائل اخلاقی مثل معنای پیمان زناشویی نیازمند زمان بود. و جان هم با عذاب وجدان رها کردن فرزندانش دست و پنجه نرم می‌کرد. و اینکه چطور همسری را ترک کند که تنها گناهش کسل کننده بودنش بود همسری که به دلیل وظایفی که بر گرفته بود از معشوق خیره کننده به مادری خسته کننده بدل شده بود جان بارها و بارها به پم اطمینان خاطر داد که در حال کار کردن روی موضوع و پیشرفت است و با موفقیت مشکل را شناسایی و بررسی کرده و تنها چیزی که به آن نیاز دارد زمان بیشتر برای جذب کردن ازمش و انتخاب لحظه مختزی برای عمل است. ولی ماهها ها گذشت و لحظه مختزی هرگز نرسید. پم فکر کرد جان هم مثل بیشتر همسران ناراضی سعی دارد از احساس گناه و بار اعمال غیر اخلاقی برگشت نپذیر پرهیز کند و میگوشد با ترفندی همسر را به تصمیم گیریوا دارد. کناره می گرفت. همه علاقی جنسی به همسرش را از دست داده بود و در سکوت و گاه با صدای بلند او را نکوهش می این همان ترفند قدیمی من نمیتوانم ترکش کنم ولی دعا میکنم او به و برود بود. ولی کارگر نبود و این همسر دوم به تله نمیداد. در نهایت پم یک طرفه وارد عمل شد. دو تماس تلفنی از سوی دو بیمار الل به عنوان عزیز جان فکر کردم شاید دلت بخواد بدونی او را به این کار برانگیخت که در ظاهر برای آنکه کار خوبی در حقش بکند درباره رفتار جنسی دوستکی ارل به پم هشدار دادند وقتی از احزاریه دادگاه مبنی بر شکایت از ارد به دلیل رفتار غیر تخصصی با بیمار سومی و میخبردار شد، از بخت خوبش که باعث شده فرزندی نداشته باشد، شکش گذار شد و به سوی تلفن رفت تا برای طلاق با وکیل مشورت کند. شاید عمل او جان را هم به این تصمیم گیری وادارد؟ با اینکه حتی اگر جان وجود نداشت زندگی مشترکش را ترک میکرد، پم با انکاری آشکار به خود قبولاند، ار را به خاطر محشوقش ترک کرده و مدام جان را با این نسخه از واقعیت روبرو میکرد. ولی جان وقت تلف میکرد. هنوز آماده نبود. بعد یک روز تصمیمش را رو گرفت. این اتفاق در ماه جوان و در آخرین روز کلاس ها روی داد. وقتی جان با نگاهی ماتم زده به پم خیره شد و گفت، پم. من دوستت دارم و چون دوستت دارم تصمیم گرفتم محکم باشم. این بیانصافی در حق توه و میخوام کمی از فشاری که بر روی تو و البته خودم هست کم کنم. من تصمیم گرفتم برای دیدر همدیگر زربال مشخص کنیم. هم هاج و واج مانده بود. به سختی حرفهای او را میشنید. تا چند روز بعد پیام موجود در سخنان او را مثل تودهی در دشت حس میکرد که برای حصف شدن زیادی بزرگ بود و برای برگرداندن زیادی سنگین. ساعتهای متوالی میان نفرت از او و عشق و اشتیاق به او و آرزوی مرگش دست و پا میزد. ذهنش فیلم نامه پشت فیلم نامه مینوشت. جان و خانوادهش در یک حادثه می میمیرن. همسر جان در یک ثانه هوایی کشته می شود و جان گاه تنها و گاه با فرزندانش بردر خانه او ظاهر می شود. گاهی در بازوان او میافتاد گاهی هر دو با هم سمیمانه اشک می دختند. گاهی تظاهر می کرد مردی در خانه اش هست و در را بر صورت او میکوبید پم از دو سال درمان فردی و گروهیش بهرهای فراوانی برده بود. ولی در این بحران درمان کارساز نبود. هیچ چیز به پای قدرت سهمگین افکار وصفاسیش نمی رسید. جولیوس شجاعانه و پیگیرانه کشید. او خستگی ناپذیر بود و مدام شگرت های بیپایانی از جبه ابزارش بیرون می کشید. اول از او خواست به بررسی خود بنشیند و میزان زمانی را که به افکار وصفاسیش اختصاص می دهد یادداشت کند. دویست تا سیصد دقیقه در روز. مبهود کننده بود؟ و به نظر می رسید کاملا اختیار از دستش خارج شده. وسواس نیروی اهریمنی داشت. جولیوس کشید با اصرار بر کاهش تدریجی و نظاممند از زمان خیال پردازی کاری کند تا او دوباره اختیار افکارش را در دست گیرد. ولی این روش شکست خورد. شیوهی متضاد را در پیش بگیرد و از او خواست هر روز صبح ساعتی را انتخاب کند و آن را به رایش ترین خیال پردازی هایش درباره جان اختصاص دهد با اینکه پم از دستور جولیوس پیروی کرد وسواس سرکش زیر بار این لگام نرفت و به همان اندازه قبل افکارش را تحت تاثیر قرار داد پس جولیوس چند شیوه توقف فکر را به کار گرفت روزها فریاد نپم بر سر ذهنش بلند بود یا کشی را که به دور مچه دستش بود می کشید و رها می کرد. به علاوه جولیوس کوشید وسواس را به کمک آشکارسازی معنای نهفتهاش خونسا کند. اصرار داشت وصفاس نوعی پرتندیشی است. تو را از فکر کردن به چیز دیگری حفظ می کند. دارد چرا پنهان می کند؟ اگر وسواسی در کار نبود به چه فکر می کردی؟ ولی وسواس سر تسلیم شدن نداشت دوره های وسواس خودشان را با او در میان گذاشتند. داوطلب شدند با تلفن در اختیار پم باشند تا هر زمان که حس کرد اختیار از دستش خارج می شود بتواند با آنها تماس بگیرد. وادارش کردند زندگیش را پر کند. با دوستانش تماس بگیرد. هر روز را به فعالیتی اجتماعی بگذراند و برای خدا هم که شده مردی را برای خودش پیدا کند. تونی با درخواست تکمیل فرم برای این مقام لبخند را به لبش آورد. ولی هیچ کدام کارگر نبود. همه این سلاح های درمانی در برابر نیروی عظیم وسواس همانقدر موثر بودند که توفنگ بادی در برابر یک کرگدن در حال حمله. بعد تصادفان با مارجی برخورد کرد. یک دانشوی در حال فارغ و تحصیلی و علاقه من به ویپاسانا با چشمانی درخشان و امیدوار که برای تغییری در عنوان پایان از او مشاوره خواسته بود. در حین گفتگو پم تحت تاثیر یکی از عبارات مورد علاقه مارجی یعنی آرام کردن ذهن قرار گرفت. این عبارت بسیار وسواس انگیز و دلفری بود. هرچه بیشتر به آن فکر کرد، بیشتر به این نتیجه رسید که آرامش ذهن دقیقا همان چیزی است که او لازم دارد. و از آنجا که درمان فردی و گروهی نتوانسته بود چنین آرامشی فراهم کند، پم تصمیم گرفت توصیه مارجی را بپذیرد. پس بلیتی برای سفر هوایی به هند رزرو کرد و به سراغ گونکار رفت که کانون آرام کردن ذهن لقب گرفته بود. برنامه روزانه اشرام حقیقتا آرامشی در او ایجاد کرده بود. ذهنش کمتر بر جان متمرکز بود. ولی حالا پم کم کم داشت به این نتیجه می رسید که بیخوابی بدتر از وسواس است. بیدار دراز میکشید و به صداهای شب گوش فرامی داد. موسیقی مت طرفوسی موزون بود همراه با اپرای خورناسها، ناله ها و نفیرها. تقریبا هر پانزده دقیقه با صدای تیز سوت پلیس که از بیرون پنجره می آمد از جا پرید. ولی چرا خوابش نمی برد؟ باید به دلیل دوازده ساعت مراقبه روزانه باشد. چه دلیل دیگری می توانست داشته باشد؟ ولی به نظر می آمد صد و شگرد دیگر به راحتی در آغوش و یزد خواب می کاش دستکم دست می توانست این سؤال را از وجای بپرسد. یک بار که یواشکی در سالن مراقبه به دنبال او میگشت، مانیل مسئول قدم زدن در راهروها و مراقبت از شاگردان، با ترکی خیزرانی که در دستش بود، ضربه ای به او زد و گفت: به درون نگاه کن، نه جای دیگر. و وقتی وی را در ردیف عقبی قسمت مردان پیدا کرد، دید راست و حرکت مثل یک بودا در وضعیت لوتوس نشسته. انگار در خلسه بود. باید در سالن مراقبه متوجه او شده باشد. در میان 300 نفر او یکی از سه نفری بود که به سبک غربی بر صندلی نشست. با اینکه از نشستن بر صندلی خجالت می کشید ولی بعد از چند روز نشستن بر زمین دچار چنان کمردردی شد که ناچار از مانیل دستیار گونکا درخواست صندلی کرد. مانیل مرد هندی باریک و بلندی که سخت میکوشید آرام به نظر بیاید، از درخواست او خوشش نیامد. بدون آنکه نگاه خیره را از افق بردارد، پاسخ داد: کمردرد؟ در زندگی گذشته چه کرده ای که گرفتارش شده ای؟ چه نومید کننده؟ پاسخ مانیل ادعای پرشور و حرارت گونکار را مبنی بر اینکه شیوهش خارج از قلم روی سنت های همه مزاحب تکسیید میکرد. کم کم داشت متوجه شکاف ژرفی میشد که میان دیدگاه غیرمذهبی مذهبی بوداییگری و باورهای خورافی مردم وجود داشت حتی دستیاران نیز نمی بر شهوت جادو راز و قدرت طلبی چیره شوند. یک بار وجای را هنگام وعده غذایی ساعت یازده صبح دید و به ترفندی خود را به صندلی کناری او رسند. شنید که نفس عمیقی کشید. درست مانند اینکه که رایه پم را به درون بکشد. ولی نه نگاهی به او انداخ و نه حرفی با او زد. در واقع هیچکس با هیچ کس حرف نمیزد. قانون سکوت مطلق کاملا حکمفرما فرما بود. در صبح روز سوم اتفاق عجیبی روحی تازه در جمع دمید. کسی در هین مراقبه بادی با صدای بلند از خود خارج کرد و چند نفر از شاگردان خندیدند. خنده مصری بود و خیلی زود چند شاگرد از خنده ریسه رفتند. گونکا خوشش نیامد و بلافاصله در حالی که همسرش را هم به دنبال خود یدک میکشید با گامهای بلند از سالن مراقبه خارج شد. بعد از مدت کوتاهی یکی از دستیاران با لحنی جدی به جمع شاگردان اعلام کرد، به آموزگارشان توهین شده و تا زمانی که شاگردان خاطی اشرام را ترک نکنند، حاضر نیست این دوره آموزشی را ادامه دهد. چند شاگرد برخواستند و رفتند، ولی در طول چند ساعت بعد صورت تبعیدی ها که پشت پنجره ها ظاهر می شدند و مثل جغد هوهو هو هم همه می کردند، آرامش مراقبه را برهم می زد. دیگر هیچ اشاره به این واقعه نشد ولی پم احتمال میداد تصویه شبانه ای هم صورت گرفته باشد چون صبح روز بعد تعداد بوده های نشسته کمتر شده بود شاگردان فقط هنگام ظهر اجازه حرف زدن داشتند و میتوانستند سوالات خاصی را از دستیاران آموزگارشان بپرسند پم در روز چهارم سوالی درباره بیخابیش از مانیل پرسید او در حالی که نگاه خیررش به دورها بود پاسخ داد نباید نگرانش باشی بدن هر میزان خوابی را که نیاز داشته باشد تأمین می کند. پم دوباره کوشید. خب پس می توانید به من بگویید چرا پلیس تمام شب بیرون پنجره من سوت می کشد؟ این پرسش ها را فراموش کن. فقط بر آناپاساتی تمرکز کن. فقط به مشاهده تنفست بنشین. وقتی واقعا سعی کنی دیگر این مسائل جزئی ناراحتت نمی کند. بوسیلی پم چنان از مراقبه تنفس سر رفته بود که شک داشت به تواند ده روز دوام بیاورد. برد. به جز نشستن، تنها فعالیت موجود گوش دادن به خطابه های کسل کننده شبانه گونکا بود. گونکا ملبس به لباس سفید درخشان مانند همه کارکنان آنجا به شدت می فسیح و شیوا صحبت کند. ولی اغلب موفق نبود چون یک قدرت طلبی نهفته از میان گفته های سر بر سخنرانی های اشهاوه های طولانی تکراری درباره تجلیل از مذیت ویپاسانا بود که اگر درست انجام می موجب تطهیر و تسکیه ذهن میشد. راهی به سوی وارستگی و یک زندگی سرشار از آرامش و تعادل می بیماری‌های بیماری های روانتنی را ریشکن میکرد و سه علت غم و بدبختی یعنی میل شدید نفرت و جهل را از بین می برد. تمرین مداوم ویپاسانا مثل باغبانی مداوم ذهن بود که در حین آن فرد علفهای های حرز فکر را از ریشه در میآورد گونکا متذکر می که اثرش به همین جا ختم نمی شود. تمرین ویپاسانا تمرین آسان و مقرون به صرفه بود. در حالی که دیگران در ایستگاه اتوبوس وقت تلف می کسی که به ویپاسانا می پرداخت می با سخت چند علف هرز شناختی را از ذهنش بیرون بکشد. دوره آموزشی ویپاسانا پر بود از قوانین ظاهران قابل درک و قابل قبول ولی تعدادشان خیلی زیاد بود دزدی کشتن هر موجود زنده دروغ فعالیت جنسی سرگرمی جسمانی نوشتن یادداشت برداشتن قلم و مداد خواندن موسیقی و رادیو تلفن رختخواب مجلل زینت بدنی از هر نوع پوشش غیر متوازیانه غذا خوردن بعد از نیم روز همه و همه ممنوع بود. و بلاخره شاگردان اجازه نداشتن راه نمایی ها و دستورات آموزگارشان را زیر سوال ببرند. باید می‌پذیرفتند، انضباط را رایت کنند و دقیقا همانطور که از آنها میخواستن مراقبه کنند. گونکا میگفت تنها با چونین منش فرمانبردارانه ای بود که شاگردانش به وارستگی میرسیدند. معمولا پم تردیدی به خود راه نمیداد. بالاخره گذشته از همه چیز، اون مردی از خود گذشته بود که زندگیش را وقف تعلیم ویپاسانا کرده بود. البته که به فرهنگش وابسته بود چه کسی نبود و مگر هند همیشه از بار سنگین آداب و رسوم مذهبی و طبقه بندی‌های سخت ایرانی اجتماعی شکایت نداشت به علاوه پم عاشق صدای گونکا بود هر شب با تنین بم و خوش آهنگ صدایش که اشکی های مقدس بودایی را میخوان به خلسه میرفت. موسیقی مذهبی کهن مسیحی خصوصا سرودهای آیینی که در کلیساها می‌خواندند نیز به همین شکل او را تحت تاثیر قرار میداد و یک بار در یک منطقه روستایی ترکیه مجذوب و مبهوت نوای خلسه‌آور موزن شده بود که پنج بار در روز مردمان را به نماز فرا می‌خاند. با اینکه پم شاگرد خوب و متعهدی بود، برایش سخت بود پانزده دقیقه به مشاهده تنفسش بنشیند، بیان که یکی از خواب و خیالهای مربوط به جان حواسش را پرت نکند. ولی کم کم تغییراتی پدید آمد. فیلم نامه های ناهمخانه اولیه در یک صحنه واحد ادغام شد. از یک منبع خبری در میافت که خانواده جان در یک سانه هوایی کشته شدهاند بارها و بارها این صحنه را تصور میکرد. دیگر حالش را به هم میزد. ولی صحنه همچنان تکرار میشد. همانطور که ملال و بیقراریش بیشتر میشد، علاقه شدیدی به کارهای بی اهمیت روزمره پیدا کرد. وقتی برای اولین بار وارد دفتر شد، متوجه کیسه های کوچک حاوی مواد پاک کننده شد. روز سوم یک کیسه خرید و بعد از آن زمان قابل توجهی را صرف شستن و دوباره شستن لباس هایش کرد. آنها را روی تنابه رختی که پشت خوابگاه بسته بودن پهن می کرد و ساعتی یک بار روند خوش شدن لباس ها را بررسی می کرد. کدام لباس زیر زودتر خشک می شد؟ چند ساعت خشک شدن در شب معادل یک ساعت خوشک شدن در روز بود؟ خشک شدن در سایه و آفتاب یا خشک شدن با یا بدون چلاندن با دست را مقایسه می کرد. روز چهارم اتفاق مهمی افتاد. گونکا شروع کرد به تدریس ویپاسانا. تکنیک ساده و واضح و قابل فهم بود. شاگردان باید مراقبه می تا زمانی که روی پوست سرشان چیزی حس کنند. خارشی، مورموری، سوزشی یا شاید احساس عبور نسیم خفیفی از روی پوست سر. شاگرد به محض که این حس را شناسایی می کرد، باید فقط به آن توجه می کرد و دیگر هیچ. تمرکز بر خارش چطور است؟ تا کجا می رود؟ چقدر طور می کشد؟ وقتی این حس از بین می رفت، مراقب کننده باید سراغ بخش بدی بدن یعنی صورت می رفت، و تحریک هایی مثل خارش سوراخ بینی یا پلک را بررسی می کرد. پس از آنکه این تحریک ها زیاد میشد، فروکش می کرد و از بین میرفت، رفت، شاگرد سراغ گردن، شانه ها و الاخر می رفت. تا جایی که همه بخش های بدن تا کف پا را بررسی میکرد و بعد دوباره به پوست سرباز می گشته و این روند را بارها و بارها تکرار میکرد. کرد. های شامگاهی گونکا به منطق پشت این تکنیک ها می پرداخت. مفهوم کلیدی آنیتیا یا ناپایداری است. اگر کسی ناپایداری هر تحریک جسمانی را به خوبی درک کند، گامی مهم در جهت دریافت و تعمیم اصل آنیتیا به تمامی رویدادها و ناخوشایندی‌های زندگی برداشته است. همه چیز می‌گذرد و اگر کسی بتواند موزه مشاهدگر خیش را حفظ کند و به تماشای نمایش گذرا بنشیند، تعادل را تجربه خواهد کرد. بعد از یکی دو روز تمرین وی پاسانا، وقتی پم مهارت بیشتری پیدا کرد و سرعت تمرکزش بر حس جسمانی افزایش یافت، تمرین برایش کمتر طاقت فرسا شد. روز هفتم با شگفتی دریافت همه این روند روی دنده اتوماتیک افتاده و همانطور که گنگکا پیش بینی کرده بود شروع کرد به روبیدن. درست مثل این بود که کسی یک کوزه اصل بر سرش بریزد و اصل آهسته بدنش را برو بد و پایین بیاید و تا پاهایش را بپوشاند. همانطور که اصل پایین میآمد یک برانگیختگی نوعی هم جنسی در خود حس کرد انگار چیزی شبیه وزوز زنبور او را در بر می گرفت ساعت‌ها به سرعت میگذشتند خیلی زود سندنی اش را کنار گذاشت و با سی ست شاگرد دیگر درآمیخت و در وضعیت لوتوس پایین پای گونکانش است دو روز بعدی هم همانطور سریع و به روبیدن گذشت شب نهم باز بیدار دراز کشیده بود هنوز به همان بدی قبل میخوابید ولی کمتر نگران آن بود چون از یک دستیار دیگر شنید بیخوابی در کارگاه ویپاسانا بسیار شایع است روشن بود که دوره های طولانی مراقبه از ضرورت خواب میکاهد این دستیار راز سودهای پلیس را هم روشن کرد در جنوب هند معمول است نگهبانان شبانه پس از هر بار دور زدن در قلم روی نگهبانیشان در سود بدمد این نوع اقدامی پیشگیرانه است که به دزدان هشدار میدهد همانطور که چراغ قرمز کوچک دزدگیر اتومبیل ها حضور آژیر اتوماتیک فعال شده را به دزدان ماشین هشدار می دهد وجود افکار تکراری اغلب زمانی بیشتر اشکار می شود که افکار از میان میرود پام وقتی متوجه شد دو روز تمام است که به جان فکر نکرده ناگهان یکی خورد جان ناپدید شده بود همه آن چرخه بی پایین خیال پردازی جای خود را به وزوز شیرین روبیدن داده بود چقدر عجیب بود که میدید حالا خودش به وجود آورنده لذتش بود و می توانست ترشح آنتروفین های آفریننده احساس خوب را کنترل کند. حالا میفهمید چرا مردم دیوانه این خلوت ها می شوند و گاهی ماهها و حتی سالها به خلوت های طولانی می روند. ولی حالا که بالاخره ذهنش را پاک کرده بود چرا شاد نبود؟ برعکس انگار سایه‌ای بر این موفقیت سنگینی می کرد. چیزی که با لذتش از رو بیدن در ارتباط بود، افکارش را و تار کرده بود. همینطور که داشت به این ماهما میاندیشید، به خوابی ثبوت فرو رفت و کمی بعد با تصویر غریبی از یک رویا بیدار شد. هنرپیشهای با پاهای کوتاه، کلاه سیلندر و عصا بر صحنه زهرش به رقص پا مشغول بود. یک ستاره رقصنده. دقیقا میدانست این رویا به چه معناست. از میان همه کلمات قصاری که او و جان دوست داشتند و با هم شریک شدند، پم عبارتی از چنین گفت زرتشت نیچه را بیش از سایرین می پسندید. انسان را در درون آشوبی میباید تا اختری رغسان از او بزاید. البته حالا سرچشمه تردیدش درباره ویپاسانا را درمیافت. سخن گونکا درست بود. او دقیقا همان چیزی را زاییده بود که وعده داده بود. تعادل، آرامش یا به قول خودش توازن. بیتی از یک شاعر انگلیسی به ذهنش راه یافت. قلم نویشته جافدان خلق نتواند مگر که در خوی و سرشت شب فرو برده شود. فرو رفتن در خوی و خصلت شب. این از وظیفه یک نویسنده بزرگ. برای آفرینش هنری باید در خوی و سرشت شب فرو رفت و به نیروی تیرگی ها لگام زد. نویسندگان بزرگ تیرگی ها، کافکا، داستایوفسکی، ویرجینیا وولف، کامو برای بازنمایی های پنهان در وضعیت بشری جز این چراحی داشتند. این کار با بیرون کشیدن خود از زندگی، نشستن و مشاهده نمایش گذرا ممکن نبود. با اینکه گون کامو دایی بودامزهایش مذهبی نیست، دین بوداییش را میشد از ورای آن دید. در سخنرانی های شبانه اش نمیتوانست جلوی خود را بگیرد و تأکید نکند که ویپاسانا شیوه مراقبه خود بودا بوده و حالا اوگونکا دوباره آن را به جهان معرفی می پام پم به این موضوع اعتراضی نداشت. با اینکه از دین بودای اطلاع کمی داشت در راه هند در هواپیما متنی ابتدایی خانده بود و تحت تأثیر قدرت و درستی چهار حقیقت برتر بودا قرار گرفته بود. یک زندگی رنج است. دو رنج حاصل دل هاست. سه پادزهری برای رنج وجود دارد. ترک آرزو، دلبستگی و ترک خیشتن. چهار طریقی ویژه برای رسیدن به حیاتی آری از رنج وجود دارد. مسیری هشت ای به سوی وارستگی. حالا متوجه می شد، وقتی به خودش، به شاگردان در خلسه به دستیاران آرامش یافته و به زاهدان خلوت گزیده در غارهای دامنه تپه که عمرشان را وقت به بیپاسانا و شیوه روبیدن کرده بودن فکر می کرد، در درستی این چهار حقیقت شک می کرد. آیا برداشته بودا درست بود؟ آیا بهای درمان سنگین تر از درمان نبود؟ در سپید دم سوپی که از راه می رسید، وقتی گروه کوچکی از زنان پیرو و آین جین رادید که به سوی حمام میرففتند بیشتر به دام تردید افتاد پیروان این آیین حکم نکشتن موجودات را در حد نامعقولی رایت می کنند. با مکس و تو زیاد و بسیار آهسته و پر زحمت مثل خرشنگ راه میروند چون اول باید سنگریزه های موجود در مسیرشان را به آرامی بروبند مبادا بر حشره پا بگذارند در واقع به دلیل نقااب های توریشان که از به درون کشیدن موجودات زنده بسیار ریز با دم جلوگیری میکرد به سختی می نفس بکشند. به هر جا که مینگ چشم پوشی قربانی شدن محدودیت و تسلیم میدید. چه برای بر سر زندگی آمده بود؟ بر سر شادی، شکوفایی، شور؟ بر سر دم را قنیمت شمردن؟ آیا زندگی این قدر پررنج و اندوه بود که باید قربانیش میکردند تا به آرامش برسند شاید چهار حقیقت برتر چیزی با بسته به فرهنگ بود شاید اینها دو و پانصد سال پیش و در سرزمینی غرق در فقر شلوغی قهدی بیماری ستم طبقاتی و بدون امید به آیندهای بهتر حقیقت بود ولی آیا در وضع فعلی او هم حقیقت به شمار میآمد ولی پم به خود گفت این ناسپاسی و بیچشم روحی نیست به هر چیز به اندازه خودش بها بده مگر ویپاسانا کارش را انجام نداده بود مگر ذهنش را آرام نکرده و افکار وصفاسیش را از میان نبرده بود مگر در برابر چیزی که خودش جولیوس و اعضای گروه را با وجود همه تلاششان شکست داده بود پیروز نشده بود خب شاید بله و شاید هم نه شاید مقایسه منصفانهی نباشد گذشته از همه چیز جولیوس تقریباً هشت جلسه کامل گروه یعنی تقریباً دوازده ساعت را به این موضوع اختصاص داده بود در حالی که ویپاسانا صدها ساعت کار می طلبید. ده روز کامل کاری به علاوه زمان و کوششی که برای پیمودن مسیر دور دنیا صرف شده بود چه اتفاقی می افتاد اگر جولیوس و گروه همین میزان ساعت روی او کار میکردند بدگمانی رو به فزونی پم مانع مراقبه بود روبی در متوقف شد آن رضایت دلپذیر شیرین و پرهیجان جان کجا رفته بود؟ تمرین مراقبه روز به روز پس رفت می کرد. مراقبه از پوست سرش جلوتر نمی رفت. آن خارش های خفیف که قبلا بسیار گذرا بود ادامه می و به تدریج شدیدتر تر می شد. از خارش به گزگز و بعد به سوزش مداوم بدل میشد و با مراقبه از میان نمی رفت. حتی تمرین آناپاناساتی نیمه کاره می من. صد دارامش که به وسیله مراقبه تنفس ساخته شده بود فرو ریخت و خیزا به افکار سرکش درباره همسرش جان یا انتقام و سانهه هوایی راهی برای رخنه دوباره یافت. خب بگذار بیایند. ار را گونه که بود دید. کودکی پیر شده که لبهای جمع شده بزرگش آماده حمله به هر نوک پستان در دسترس است. و جان، جان بینوا وامانده و ترسو که هنوز نمیخواست بفهمد بدون نگفتن هیچ در کار نیست. و, و جایی که انتخاب کرده زندگی، تازگی ماجراجویی و دوستی را پیش پای مهراب خدای بزرگش آرامش و تعادل قربانی کند. پمندیشید، واجه مناسب برای این جمع یک چیز است. بزدلها، بزدلان اخلاقی، هیچ کدام شایستگی او را نداشتند همه را کنار بگذار حالا تصویر قدرتمندی شکل گرفته بود همه مردان جان، ارل، جای در کاسه توالت عظیمی استادند و دستانشان را به التماس بالا آوردند ولی فریاد کمکشان به سختی در قرش صدای آب سیفون شنیده می شود. این تصویری بود که ارزش مراقبه داشت رادیو گل پاسخ داد: «ای ابله، تصور این من میشه گفم تا دیده شوم. من برای خودم میشه گفم نه برای دیگران. چون شکوفایی خرسندم میکند سرچشمه شادی من در وجود خودم و در شکوفاییم است.» فصل نوزده. بانی جلسه بعد را با عذرخواهی آغاز کرد. از تک تک تون بابت ترک جلسه پیش عذرخواهی می میکنم. نباید این کارو میکردم ولی نمیدونم دست خودم نبود. تونی با پوزخند گفت شیطان مجبورت کرد؟ با مزه بود تونی خیلی خوب میدونم چی ازم میخواین. خودم انتخاب کردم این کارو بکنم چون گن زدید به سر تو پام. بهتر شد؟ تونی لبخند زد و شستش رو به نشانه رضایت و موفقیت بالا برد. گیل با لحن ملایمی که همیشه برای زنان گروه به کار می برد به بانی گفت هفته پیش بعد از رفتنت جولیوس گفت شاید از ما زده شدی چون اون توجهی که باید بهت نشد. یعنی گروه ماجراهای معمول دوران کودکیت رو زنده کرد. دقیقا همین بود. با این تفاوت که ازتون زده نشدم. آزرده شدن اصطلاح بهتریه ربکا گفت من میدونم گند زدن یعنی چی و تو خوب به من گند زدی صورت بانی در هم رفت و رو کرد به ربکا هفته پیش گفتی فیلیپ برات روشن کرد که چرا دوست زن نداری ولی من اون دلیل و قبول ندارم حسادت به زیبایی دلیل نداشتن دوست زن نیست یا دستکم دلیل صمیمی نشدن من و تو نیست دلیل اصلیش اینه که تو از اساس علاقی به زنها نداری یا دست کم علاقی به من نداری. هر وقت توی گروه چیزی به من میگی، همیشه برای اینه که موضوع صحبت رو دوباره به خودت برگردونی. من درباره نحوه مهار یا در بیشتر مواقع مهار نکردن خشمت بازخورد میدم و بعد به خودخواهی متهم میشم. ربکا براق شده بود. بازخورد میخوای یا نمیخوای، مگران نیست کار این گروه همین باشه؟ چیزی که من میخوام اینه که تو درباره خودم به من بازخورد بدی یا درباره رابطه من با دیگری. ولی بازخورد تو همیشه درباره خودت ربکا یا خودت تو من. و تو اونقدر جذابی که همه چی به سمت تو میاد و از من دور میشه. من نمیتونم با تو رقابت کنم. ولی این فقط تقصیر تو نیست. بقیه هم وارد این بازی میشن و من باید از همهتون یه سوال بپرسم. بانی در حالی که نگاهش را به نوبت از یکی به دیگری می برد گفت من هیچوقت توجه شما رو جد نکردم. چرا؟ مردان اتاق سر به زیر انداختند. بانی منتظر پاسخ نشد و ادامه داد و یه چیز دیگه کا چیزی که درباره دوست زن بهت گفتم برای تازگی نداره. خیلی خوب یادمه که پم هم اینن همین ماجره رو با هم داشتیم. بانی رو کرد به جولیوس راستی حرف از پم شد. میخواستم بپرسم خبری ازش داری؟ کهی برمیگرده؟ دلم براش تنگ شده. جولیوس گفت. سرعتت زیاد شده بانی. انگار پشت گردباد سواری و از این موضوع به اون موضوع میری. ولی فعلا میخوام خیالت از این بابت راحت بشه و سوالت رو جواب بدم. چون اصلا میخواستم به همه اعلام کنم که پم از بمبعی برام ایمیل زده. دوره مراقبش رو تموم کرد و خیلی زود به آمریکا برمیگرده باید جلسه بعد اینجا باشه. جولیوس رو به فیلیپ گفت: « یادت هست پم عضو قایب گروه برات گفتم، فیلیپ با تکان مختصر سر پاسخ داد. تونی گفت: «فیلیپ، تو هم خدای سرجنباندن های سریعح ها، خیلی عجیبه که بدون نگاه کردن به کسی و بدون اینکه زیاد حرف بزنی اینطوری روی موضوع صحبت متمرکز میمونی. ببین چقدر حرف دربارت زده میشه. بانی و ربکا دارن سر تو با هم کلنجار میرن. دربارۀ این اتفاق چه حسی داری؟ احساست درباره گروه چیه؟ از اونجا که فیلیپ بی درنگ پاسخ نداد، تونی معذب شد. نگاهی به گروه انداخت. گندش بزنن. این چه وضعیه؟ انگار دارم قانون اینجا رو زیر پا میذارم. من دارم همون سوالی رو ازش میکنم که هرکی ممکنه از اون یکی بپرسه. فیلیپ سکوت کوتاهش را شکست. سوالت بجاست. زمان نیاز دارم تا فکرمو و جمع کنم. چیزی که داشتم بهش فکر میکردم این بود که بانی و ربکا درد مشابهی دارن. بانی نمیتونه نامحبوب بودن رو تحمل کنه در حالی که ربکانه میتونه دیگه محبوب نبودن رو تحمل کنه هر دو گرفتار حوثی که در سر دیگران میگذره به عبارت دیگه شادی برای هر دوی اونا در دستان سرهای دیگرانه و درمان هر دوشون هم یکیه هرچی دارایی درونی فرد بیشتر باشد کمتر از دیگران میخواهد در سکوتی که هوک فرما شد، حتی صدای تلاش گروه برای حزم کلمات فیلیپ را میشد شنید. جولیوس گفت: به نظر نمیاد هیچ کدومتون بخوان جواب فیلیپ رو بدین. پس من به خطایی اشاره می کنم که دو دقیقه پیش مرتکب شدم. بانی، من نباید دنباله حرف تو رو درباره پم میگرفتم. نمیخوام دوباره ماجرای هفته پیش رو تکرار کنیم و به نیازهای تو نپردازیم. چند دقیقه پیش پرسیدی چرا گروه اغلب تو رو نادیده میگیره و فکر می میکنم وقتی از همه پرسیدی چرا توجهشون رو جلب نمیکنی قدم ای برداشتی ولی ببین بعدش چی شد بلافاصله موضوع رو عوض کردی و به برگشتن پم به گروه پرداختی و خیلی زود در عرض دو دقیقه سؤال تو از ما به تاریخ پیوست استوارت گفت منم متوجه این موضوع شدم پس بانی اینطور طور به نظر میاد که تو کاری میکنی که ما نادیدت بگیری. بانی سری تکان داد. این بازخورد خوبیه. خیلی هم خوبه. احتمالا زیاد همین کارو میکنم. دربارش فکر خواهم کرد. جولیوس موضوع رو پی گرفت. ممنون از این تشكر بانی. ولی حس میکنم الان هم داری همون کارو انجام میدی. انگار داری میگی تمرکز روی من بسه. باید یه زنگ بانی اینجا بذارم و هر بار که توجه رو از خودت برمیگردونی زنگ رو به صدا در بیارم. بانی پرسید پس چیکار کار کنم؟ جولیوس پیشنهاد کرد. مثلا ببین چرا فکر میکنی حق نداری از ما درباره خودت بازخورد بخوای. شاید چون فکر نمی کنم اینقدر مهم باشم. ولی به نظر درسته که بقیه اینجا چنین درخواستی داشته باشن؟ اوه بله. این یعنی بقیه اینجا از تو بانی بانی سرتکان داد. جولیوس ادامه داد. حالا که اینطوره اینو امتحان کن. به تک تک اعضا نگاه کن و به این سؤال جواب بده. کی توی این گروه تو مهمتره؟ و چرا؟ جولیوس میتوانست آخش گفتنهای خودش را بشنود. دراب های آشنا گوته میخورد. برای نخستین بار بعد از مدت ها از بعد از ورود فیلیپ به گروه دقیقا می دانست دارد چه می کند. همان کاری را کرده بود که یک گروه درمانگر خوب باید بکند. مسئله کانونی یکی از بیمارانش را به اینجا و اکنون ترجمه کرده بود. جایی که می مورد بررسی دست اول قرار گیرد. تمرکز بر اینجا و اکنون همیشه سمر از کاری روی بازسازی رویدادی در گذشته یا زندگی جاری بیرونی بیمار است بانی با چرخاندن سر و نگاه به تک تک اعضای گروه گفت همه اینجا از من مهمترند، خیلی مهمتر صورتش برفروخته و نفسش تند شده بود همان قصد که مشتاق توجه دیگران بود معلوم بود در این لحظه چیزی جز نامرعی شدن نمی‌خواست. جولیوس سماجت کرد. بانی، مشخصا بگو چه کسی از تو مهمتره و چرا؟ بانی نگاهی به دور ورانداخت. هر کسی که اینجاست، خودت جولیوس. ببین چه جوری به همه کمک میکنی؟ ربکا اونقدر قشنگه که آدم با دیدنش بیهوش میشه. یه وکیل موفقه و بچه‌های فوق‌العاده‌ای داره. گیل مدیرامل یه بیمارستان بزرگ و در عین حال مرد خوشیکل و جذابیه استوارد یه دکتر پرمشغله است به بچهها کمک میکنه به پدر و مادراشون کمک میکنه موفقیت از سر و روش میباره تونی بانی چند لحظه مکس کرد تونی که مثل همیشه شلوار جین و تیشرت سیاه داشت و کفش‌های کتانیش پوشیده از لکه های رنگ بود در صندلیش لم داد و گفت خب داره جالب میشه تونی تو قبل از هر چیز خودتی نه قیافه میگیری و نه عداعتفار در میاری یه آدم بیشیل پیله نابی و از شغلت ایراد میگیری ولی میدونم یه نجار ساده نیستی شاید در حرفه خودت یه هنرمند باشی با بی ام پر سرعتت این دورو دیدمت و تو هم برای خودت تیکیه هستی تیشرت تنگ خیلی بهت میاد تا اینجاش چطور بود؟ بانی نگاهی به حلقه گروه انداخت دیگه کی مونده؟ فیلیپ پر هوشیت توی چشم میزنه همه چیزو میدونی یه معلمی قرار درمانگر هم بشی و حرفات همه رو شیفته میکنه و پم پم شگفت یه استاد دانشگاه یه روح آزاد و رها توجه همه رو جلب میکنه همه جا هست همه رو میشنناسه همه چیز خونده هیچکس به پاش نمیرسه جولیوس گروه را از نظر گذراند واکنش به توضیح بانی برای کمتر مهم بودنش در مقایسه با هر کدومتون. هر کس که میخواد. گیل گفت. جوابش از نظر من بیمعنیه. جولیوس گفت. میشه به خودش بگی؟ متاسفم منظورم اینه که نمیخوام توهینی کرده باشم. ولی بانی جوابت یه جور پس رفته. چهره بانی از حیرت در هم رفت. پس رفت؟ خب ماجرای این گروه از این قراره که همه ما آدم هستیم که سعی میکنیم ارتباطی انسانی با هم برقرار کنیم و هممون اون نقش ها و مدارک تحصیلی پول اتومبیلمون رو پشت همین در میذاریم و وارد میشیم جولیوس گفت دقیقا تونی به میان صحبت و گفت و این توضیح بدم که اون بی ام رو دست دوم خریدم و قسطش تا سه سال دیگه و بال گردنمه گیل ادامه داد بانی کاری که تو کردی دقیقا تمرکز بر این چیزای بیرونی بود حرفه پول بچهای موفق هیچ کدوم از اینا به اینکه چرا تو کم اهمیت فرد در این اتاق هستی ربطی نداره من تو رو خیلی مهم میدونم تو یوز کلیدی هستی با همه ای ما در ارتباطی خونگرم و بخشنده حتی همین دو هفته پیش وقتی نمیخواستم خونه برم به من پیشنهاد جای خواب کردی تو گروه را متمرکز نگه میداری تو اینجا خیلی سخت کار میکنی بانی تسلیم نشد من یه مزاحمم. همه عمرم به دلیل علکی بودن پدر مادرم خجالت کشیدم همیشه درباره باره دروغ گفتم گیل دعوت تو بخونم برام یه اتفاق بزرگ بود من هیچوقت نتونستم بچه های مدرسه رو به خونمون دعوت کنم چون میترسیدم بابام مست از را برسه شوهر سابقم هم الکلی بود و دخترم معتاد به هروینه. جولیوس گفت: هنوز داری از موضوع اصل تفره میری از گذشته دخترت همسر سابق تو خونوادت حرف می‌زنی. ولی تو چی؟ خودت کجایی؟ من همین چیزام. ترکیبی از همه اینام. چه چیز دیگه میتونم باشم؟ یه کتابدار کسل کننده خفه کارم اینه که کتابها رو فهرست کنم. من من نمیدونم منظور چیه گیج شدم نمیدونم کجا و کی هستم بانی شروع کرد به گریه کردن دستمالی بیرون کشید و فین محکمی کرد چشمان را بست و هر دو دستش را بالا آورد و دوایری در هوا رسم کرد و همانطور که حق, حق می میکرد زیر لب گفت بسمه امروز بیشتر از این نمی کشم جولیوس دنده عوض کرد و رو کرد به همه گروه بذاریم ببینم در چند دقیقه گذشته چه اتفاقایی افتاد کی میخواد از احساس یا مشاهدش بگه؟ پس از آنکه موفق شد گروه را به اینجا و اکنون بکشاند گام بعدی را برداشت از دیدگاه او کار درمان دو مرحله دارد اول تعامل که اغلب بخش است و دوم درک آن تعامل این مسیری است که درمان باید در آن پیش رود. زنجیره متناوب به برنگیختن حیجانها و بعد درک آنها حالا میخواست گروه را وارد مرحله دوم کند پس گفت بذارین به عقب برگردیم و نگاهی بیطرفانه و بدون احساسات به اون که رخداد داشته باشیم اسوار در صدد بود ترتیب وقایع را توضیح دهد ده که ربکا پیش دستی کرد به نظر من مسئله مهم این بود که بانی دلایل خودش رو برای کم اهمیت بودن شمارد و فکر کرد ما هم باهاش موافقیم اینجا بود که گیت شد و گریه کرد و گفت بسشه این رفتار رفتارو قبلا هم ازش دیدم تونی گفت آره موافقم بانی تو وقتی احساساتی شدی که توجه خیلی زیادی گرفتی مرکز توجه بودن ناراحتت میکنه؟ بانی که هنوز حق هق, هق میکرد گفت باید ما تو می بودم ولی به ببین چه افتضاحی بالا آوردم. ببین اگه بقیه جای من بودن چه استفاده بهتری از این زمان می جولیوس گفت یه روز با یکی از همکارام درباره یکی از بیمارانش حرف می زدم. اون می مریض شادت داره نیزه هایی رو که به طرفش پرتاب می بگیره و اونا رو تو تن خودش فرو کنه و خودشو عذاب بده. بانی شاید خیلی مربوط نباشه ولی وقتی دیدم چطور یه چیزایی رو پیدا می کنی که خودتو براشون سرزنش کنی یاد توصیفه همکارم افتادم میدونم همتون رو کردم فکر کنم هنوز بلد نیستم چطور از گروه استفاده کنم خب خودت میدونی چی میخوام بگم بانی؟ دقیقا کی اینجا بیتاقت شده؟ یه نگاه به دوربرت منداز؟ گروه می شرط ببندد که جولیوس اینسانان را میپرسد امکان نداشت اجازه ده هرچنین ای بر زبان بیاید و او بی که رویش کار کند و از نام افراد بپرسد از آن بگذرد. خب فکر میکنم ربکا دلش میخواست من تموم کنم. چی؟ چرا من باید؟ یه لحظه صبر کن ربکا. جولیوس امروز به طرز غیرمعمولی معمولی را هدایت میکرد. بانی دقیقا چی دیدی؟ چه نشونه هایی دریافت کردی؟ از ربکا؟ خب اون ساکت بود حتی یک کلمه حرف هم نزد نمیتونم بفهمم من همه یه سعیم کردم که ساکت بمونم تا نتونی متهمم کنی توجه رو از تو برمیگردونم نمیتونی هدیه قبول کنی؟ بانی در صدد پاسخ بود که جولیوس از او خواست به توصیف کسانی که حوصلهشان سر رفته ادامه بدهد خب نمیتونم دقیق بگم ولی همیشه میتونی بفهمی کی مردم حوصلشون سر رفته خودم هم حسلم سر رفته فیلیپ به من نگاه نمی کرد ولی آخه اون هیچ وقت به کسی نگاه نمی میدونم گروه منتظر بود چیزی از فیلیپ بشنوه چیزی که درباره محبوبیت گفت برای گروه خیلی جالبتر از نقنقای من بود تونی جواب داد خب پسنه من که سر نرفت و ندیدم کس دیگه هم خسته شده باشه و چیزی که فیلیپ گفته هم جالبتر از حرفای تو نبود اون بیشتر تو خودش سر میکنه. و نظراتش من یکی رو به هیجان نمیاره حتی یادم نیست چی گفت استوارت گفت من یادمه بعد از اینکه تو گفتی اون چطور با وجود کم حرفی متمرکز میمونه گفت مشکل بانی و ربکا خیلی شبیه هم دیگه است اونا زیادی به نظر دیگران بها می‌دن کا زیادی به خودش باد میکنه و بانی زیادی دل سرد میشه. یه چیزی تو همین مایه ها. تونی در حالی که جست دست گرفتن دورمین و عکس انداختن رو گرفته بود گفت باستو اکاس شدی؟ درسته بذار صادق باشم. میدونم میدونم. مشاهده کمتر احساسات بیشتر. موافقم که فیلیپ بدون اینکه مجبور باشه زیاد حرف بزنه متمرکز میمونه. و وقتی آدم میخواد برای هر چیزی جلوش وایسه این حس پیدا میکنه که انگار داره قوانین رو زیر پا میذاره. جولیوس گفت این یک مشاهده و یک نظر استوارد. میتونی بری سراغ احساس؟ خب فکر میکنم به علاقه ربکا به فیلیپ یکم حسودیم میشه. برام عجیب بود که هیچکس از فیلیپ نپرسی چه حسی در این مورد داره. خب به نظرم این یکی احساس به حساب نمیاد نه؟ جولیوس گفت داری نزدیک میشی پسر خالی احساسه ادامه بده حس میکنم فیلیپ تهدیدم میکنه زیادی باهوشه. به علاوه حس میکنم به من اعتنای نداره و خوشم نمیاد به هم کم محلی بشه جولیوس گفت آفرینه سوارد داری خبره میشی از فیلیپ سوالی داری؟ جولیوس میکشید لحنش رو ملایم و دلپذیر نگه دارد. کار او این بود که کمک کند گروه فیلیپ را عضوی از خود به شما را ورد. نه اینکه با پیله کردن به او وادارش کند به همان چیوه نامناسب پیشین رفتار کند تا گروه عملا تردش کند معلومه ولی سوال کردن از فیلیپ سخته اون اینجاست و سوارد. یکی دیگر از قوانین اصلی جولیوس هرگز اجازه ندهید اعضا به صورت سوم شخص با هم صحبت کنند خب مسئله همینه دیگه حرف زدن باهاش سخته اسوالت رو کرد به فیلیپ منظورم اینه که حرف زدن باهاش سخت فیلیپ چون تو هیچ وقت به من نگاه نمیکنی. درست مثل همین الان دلیلش چیه فیلیپ در حالی که هنوز به سقف خیره شده بود گفت میخوام به مشورت با خودم ادامه بدم جولیوس متترس بود که در صورت لزوم به میان صحبت بدود ولی استوارت حسله به خرش داد نمیفهمم اگه شما از من سوالی بپرسید میخوام در درون خودم بنگرم بدون اینکه چیزی حواسم و پرت کنه تا بتونم بهترین جواب ممکن رو بهتون بدم ولی وقتی به هم نگاه نمیکنی حس میکنم ارتباطی بینمون برقرار نشده ولی حرفان باید چیز دیگهای بهتون بگه تونی گفت پس چطور راه بری و آدامس بجوی ببخشید فیلیپ با تعجب سرش و نه چشمانش را به طرف تونی برگرداند اینم هم مثل همون دیگه چی میشه هر دوتا کار رو با هم بکنی هم بهش نگاه کنی و هم یه جواب خوب بهش بدی ترجیح میدم ذهن خودم رو جستجو کنم تلاقی هم با دیگران حواسم را از جستجو و پیدا کردن جوابی که دیگری دوست داره بشنوه پرت میکنه پاسخ فیلیپ تونی و بقیه را به فکر فرو برد و سکوت حاکم شد بعد استوارت سوال دیگری مطرح کرد خب فیلیپ بگو ببینم این حرفایی که درباره دلبری دل ربکا و زدیم چه حسی در تو ایجاد کرد؟ چشمان ربکا عصبی بود میدونی چیه؟ دیگه واقعا داره به هم برمیخوره استوارت انگار خیالات بانی برای همهتون وحی منزل شده استوارد نخواست از موضوع حرف شود باشه باشه این سوال رو خط بزنید فیلیپ اینو جواب بده بحثهایی که جلسه قبل دربارد شد چه حسی در تو ایجاد کرد بحث خیلی جالب بود و همه حواسم متوجهش بود فیلیپ نگاهی به استوارت انداخت و ادامه داد ولی اگه منظورت پاسخهای حیجانیه هیچ حسی نداشتم استوارت پاسخ داد هیچی آخه اینکه نمیشه بیش از ورودم به گروه کتاب جولیوس درباره گروه درمانی رو خوندم و برای اتفاقاتی که در این جلسات میفته کاملا آماده بودم انتظار داشتم اتفاقای خاصی بیفته هدف كنجکاوی گروه قرار بگیرم برای بعضی خوشایند باشم و برای بعضی نه سلسله مراتب قدرت با ورود من به هم بریزه برای زنا مطلوب باشم و برای مردان نامطلوب ورودم برای افراد کلیدی گروه خوشایند نباشه ولی افرادی کمتر گذار گروه از هم حمایت پیش پیشبینی این چیزا باعث شده نگاه هم به اتفاقات درون گروه عاری از احساسات باشه اسوات و بیش از اوتونی از پاسخ فیلیپ جا خوردند و برای حضم کلمات فیلیپ غرق در سکوت شدند جولیوس گفت من در وضع دشواری گیر کردم مکسی کرد و بعد ادامه داد از یک طرف حس میکنم مهمه که این بحث رو با فیلیپ ادامه بدیم ولی از طرف دیگه نگران ربکا هستم کجای ربکا؟ به نظر ناراحت میای و میدونم داری سعی میکنی با گروه پیش بیای حس میکنم امروز یکم رنجیدم انگار ترد شدم و به هم کم شده هم از طرف بانی هم از طرف استوارت ادامه بده کلی حرفای منفی دربارم زده شد اینکه خودخواهم علاقهای به دوستان زن ندارم برای فیلیپ اطوار میریزم اینا آدم و میسوزونه اصلا این حالت رو دوست ندارم جولیوس گفت میدونم چه حسی داری منم وقتی ازم انتقاد میشه همین واکنشهای ناخداگاه رو دارم ولی بزار بگم یاد گرفتم چیکار کنم. حقش اینه که باز خود رو یه هدیه ببینی ولی اول باید تصمیم بگیری که این بازخورد درست و دقیق بوده یا نه؟ روش من اینه که به بررسی خودم میپردازم و از خودم میپرسم آیا با برداشت من از خودم همخانی داره یا نه؟ آیا هیچ بخشی از اون هست حتی زرهی مثلا 5 درصد که به نظرم درست بیاد؟ سعی میکنم به یاد بیارم که مردم در گذشتم چنین بازخوردی به من دادن یا نه؟ به افراد دیگری فکر میکنم که میتونم موضوع رو باشون درمیون بذارم و ازشون نظر بخوام شاید کسی به یکی از اون نقاط کور من راه پیدا کرده و چیزی رو میبینه که من نمیتونم ببینم اینی که گفتم امتحان کنی؟ کار آسانی نیست جولیوس احساس سنگینی میکنم ربکا دستش رو بر جناق سینه فشار داد و گفت درست اینجا به این سنگینی و فشار زبان بده چی داره میگه؟ میگه چطور به نظر میام؟ خجالت آوره زیر نظر بودن این قضیه توجه ادمو به بازی کردن من با موهام از این مسئله چندش میشه دلم میخواد بگم به شما هیچ ربطی نداره موهای خودمه هر کاری بخوام با اونا میکنم جولیوس با لحن آموزگارانه پاسخ داد سالها پیش روان درمانگری بود به نام فریس پرز که مکتبی به نام گشتال درمانی رو پایه گذاری کرد این روزا چیز زیادی دربارهش بارش نمیشنوید. ولی به هر حال اون تمرکز زیادی بر تن و جسم افراد داشت مثلا اینکه دقت کن ببین دست چپت الان داره چیکار کار میکنه یا میبینم خیلی با ریشت بازی میکنی از بیمارانش میخواست در اون حرکت مبالغه کنن دست چپت رو محکم تر مشت کن یا بیشتر و محکمتر ریشت را دستمالی کن و دقت کن ببین چه چیز رو به یادت میاره و چه حسی رو برمیانگیزه من همیشه حس کندام روی کرد پرس چیزای زیادی برای آموختن داره چون بخش بزرگی از ناخودآگاه ما خودش رو با حرکات بدنیمون بیان میکنه حرکاتی که بیرون از سیه خداگاهی ما قرار دارن ولی خیلی ازش در درمان استفاده نکردم دلیلش درست به دلیل اتفاقی که همین الان داره میفته. ربکا، وقتی دیگران ما رو متوجه رفتاری می‌کنند که خودمون ازش آگاه نیستیم، اغلب حالت دفاعی می گیریم. پس میفهمم چه حس ناخوشایندی داری. ولی با وجود این، میتونی در همین حس باقی بمونی و چیز با ارزشی توی این بازخورد پیدا کنی. به عبارت دیگه داری میگی بالغانه رفتار کن. سعیم رو میکنم. ربکا صاف نشست، نفس عمیقی کشید و با چهره‌ای مصمم شروع کرد. اول اینکه این درسته که من توجه رو دوست دارم و وقتی درمان رو شروع کردم از اینکه دارم پیر میشم و دیگه مردا به هم زل نمیزنن ناراحت بودم. پس شاید برای فیلیپ دلبری کرده باشم ولی آگاهانه نبوده. رو کرد به گروه. پس حق با شماست. من مقصرم دوست دارم تحسینم کنند. دوست دارم آشقم باشند و بپرستندم. من عشق و دوست دارم. فیلیپ حرفش را قطع کرد. افلاتون به این نتیجه رسیده که عشق در درون کسی است که آشقه، نه در درون کسی که مورد عشقه. ربکا با لبخند گذرایی گفت عشق در درون عاشق است، نه در درون معشوق. این نقل قول فوقالدهی فیلیپ. میبینی، این همون چیزیه که من در تو دوست دارم. اظهار نظرایی شبیه به این. اینا چشم منو باز میکنن. باعث میشه به نظرم جالب بیای و البته جذاب ربکا خطاب به گروه گفت: من ایش اینه که میخوام باهاش رابطه ای داشته باشم؟ نه خیر. آخرین رابطه ای که داشتم زندگی زناشیم رو به هم ریخت و من دنبال دردسر نمیگردم. تونی گفت: «خب فیلیپ درباره حرفای ربکا هیچ حس خاصی نداری؟ قبلا گفتم که هدفم در زندگی اینه که تا جایی که ممکنه کمتر آرزو کنم و تا جایی که ممکنه بیشتر بدونم عشق، شهوت و اقواگری امیال قدرتمندی هن. بخشی از ابزار بقای گونهی انسانی اند و همون جور که رابکا روشن کرد ممکنه ناخوشاگاه عمل کنند ولی از همه مهمتر این فعالیت ها عقل را از راه بدن می‌کنند و مانع فعالیت های دانش دوستانه من میشوند نمی‌خوام کاری به کارشون داشته باشم تونی گفت هر بار چیزی ازت میپرسم جوابی میدی که استدلال در برابرش سخته. هیچ وقت سوال منو جواب نمیدی. ربکا گفت: به نظرم جوابت رو داد. روشن کرد که هیچ جور گرفتاری عاطفی نمیخواد. میخواد آزاد و حواس جمع بمونه. فکر کنم جولیوس هم منظورش همین بوده. به همین دلیله که درگیری‌های عاشقانه در گروهی تابوئه. چه تابویی؟ من تا حالا نشنیدم چنین قانونی با صدای بلند گفته بشه. هرگز اینطوری دربارهش صحبت نکردم تنها قانون بنیادینی که از من شنیدید درباره روابط اعضای بیرون از جلسات گروه و اون اینه که نباید رازی در میون باشه و هر نوع برخوردی بین اعضای بیرون از جلسات گروه باید به درون گروه آورده بشه اگه این اتفاق نیفته اگه رازها رو پیش خودتون نگه دارین تقریبا همیشه ماشین گروه به گل میشینه و در درمان خودتون کار میشه این تنها قانون من درباره روابط بیرون از اینجاست ولی ربکا، بهتر رشته صحبت رو درباره اونچه بین تو و بانی میگذره از دست ندیم. از احساست نسبت به اون بگو. حرفش برام سنگین بود. آیا واقعا من با زنا ارتباط برقرار نمی کنم؟ میخوام جواب بدم اینجوری نیست. مثلا خواهرم باهاش صمیمیم تا حدودی و دو وکیل زن توی دفترم. ولی بانی تو احتمالا به مسئله خاصی اشاره داری. معلومه که لذت و هیجان من برای ارتباط برقرار کردن با مردا بیشتره. بانی گفت: یاد دوره کالج میافتم. اینکه چقدر کم قرار ملاقات داشتم. و وقتی بعضی دخترها بدون کمترین فکری در آخرین لحظه قرارشون رو با من به هم میزدند. چون با یه پسر قرار داشتند چقدر احساس طرد شدن میکردم. ربکا گفت: آره. بعید نبود. منم هم همین کارو میکردم. حق با توه پسرا و قرار ملاقات تنها چیزی بود که اون موقع وجود داشت اون دوره اینجوری بود الان دیگه نه تونی که هنوز توجهش به فیلیپ بود دوباره رو کرد به او میدونی فیلیپ تو هم یه جوره شبیه رابکای تو هم دلبری میکنی ولی با شعارهای تر و تمیز و پرهارت و پورت فیلیپ با چشمانی که به دلیل تمرکز عمیق بسته بود جواب داد منظورت اینه که انگیزن برای صحبت از مشاهده هم اون چیزی نیست که به نظر میاد این کارم بیشتر خودخواهانه است و نوعی دلبریه. و اگه درست متوجه منظورت شده باشم میگی با این کار میخوام علاقه و تحسین ربکا و دیگران را برانگیزم. درسته؟ خلق خوی جولیوس تنگ شد. هر کاری میکرد باز توجه گروه به فیلیپ برمیگشت. دستکم سه اشتیاق متضاد در ذهنش با هم میجنگیدند تا توجه او را به سوی خود جلب کنند. اول فیلیپ را در برابر این همه رویارویی محافظت کنند. دوم اجازه ندهد روش بی احساس و غیر شخصی فیلیپ گفتگوی صمیمانه گروه را از مسیر خارج کند و سوم اینکه های تونی را برای نشاندن فیلیپ سر جای خودش تشویق کند ولی سرانجام تصمیم گرفت در آن لحظه دخالتی نکند چون گروه خود داشت وضعیت را به خوبی مدیریت می کرد در واقع رویداد مهمی رخ داده بود برای نخستین بار فیلیپ داشت پاسخی مستقیم و حتی شخصی به یک نفر میداد. تونی سری به تایید تکان داد. منظورم همین بود. فقط شاید هدف چیزی بیشتر از جلب توجه یا تحسین باشه. بیشتر اقواگریه. بله تصحیح درستیه. اصطلاح تو یعنی دلبری دقیقا همین معنی رو میده. و منظورت اینه که انگیزه من و ربکا مشابهه. یعنی من هم دلم میخواد اونو از راه در کنم. خب این نظریه ارزشمند و قابل قبولیه. باید دید چطور میشه امتحانش کرد هیچ کس پاسخ نداد ولی به نظر نمی فیلیپ منتظر پاسخ باشد بعد از لحظه تعمل با چشمان بسته گفت شاید بهترین راه اینه که شیوه دکتر هرسفلت رو به کار ببریم منو جولیوس صدا کن آه بله یعنی شیوه جولیوس رو به کار ببریم من اول باید ببینم نظریه تونی با تجربه درونی هم همخوانی داره یا نه مکسی کرد و سرش را جنباند شواهیدی برای اثباتش پیدا نمی کنم. سالها پیش همه رشته های دلبستگیم رو به افکار عمومی بریدم و خودم رو رها کردم. با تمام وجود معتقدم شادترین آدم ها کسانی که به دنبال چیزی جز تنهایی نیستند. دارم از شوپنهاور عزیز نیچه و کانت حرف می‌زنم. نظر اونا و نظر من اینه که مردی که از ثروت درونی برخورد داره از دنیای بیرون چیزی نمیخواد جز این هدیه که مزاحم اوقات فراغتش نشه و اجازه بده از ثروت درونیش یعنی توان بالای فکریش لذت ببره. پس خلاصه کنم. به این نتیجه میرسم که نمیخوام با حرفم کسی رو از راه بدر کنم یا خودم رو در چشم کسی بالا ببرم. شاید از رگه هایی از اشتیاق باقی مونده باشه ولی فقط میتونم بگم تجربه آگاهانه ای او ندارم. تصدیق می میکنم از اینکه فقط این اندیشه های بزرگ را یاد گرفتم و خودم چیزی به اونا اضافه نکردم متأسفم. جولیوس در طول دهها سرپرستی گروه درمانی شاهد سکوت‌های زیادی بود ولی سکوتی که پس از پاسخ فیلیپ حاکم شد شبیه هیچ کدامشان نبود. نه سکوتی بود که بار هیجانی زیادی داشته باشد و نه سکوتی که نشانه وابستگی رو در باستی یا سردرگمی باشد. نه این سکوت متفاوت بود. درست مثل این که گروه از دیدن یک گونه جانوری جدید، شاید یک سمندر شش چشم با بالهای پوشیده از پر، جا خورده باشد و با نهایت احتیاط و ملاحظه آهسته به دورش جمع شود. ربکا نخستین کسی بود که واکنش نشان داد. این همه قناعت، نیاز کم به دیگران، نخواستن همراهی دیگران، یعنی تنهایی خیلی زیاد فیلیپ. فیلیپ گفت: برعکس قبلا که مشتاق همراهی دیگران بودم، چیزی از اونا میخواستم که به من نمیدادن. در واقع نمیتونستن بدن. اون موقع بود که فهمیدم تنهایی یعنی چی. خیلی خوب باهاش آشنا شدم. نیازی به کسی نداشتن به معنای هرگز تنها نبودنه. انزوای پربرکت همون چیزیه که من به دنبالشم. استوارت گفت، ولی با همه اینا تو اینجایی. و اینو از من بشنو که این گروه دشمن بزرگ تنهایی. چرا خودت رو در معرض چنین چیزی قرار دادی؟ هر متفکری باید خودش رو تامین کنه. میتونه مثل کانت یا هگل بختیارش باشه و حقوق دانشگاهی داشته باشه. یا مثل شوپنهاور دارایی مستقلی داشته باشه. یا مثل اسپینوزا برای تامین معاشش شیشه عینک تراش بده و کار روزانه داشته باشه. من مشاوره فلسفی رو به عنوان کار روزمره‌م انتخاب کردم. و این گروه بخشی از تجربه برای دریافت مجوز این کاره. استوارت گفت، این یعنی تو در این گروه با ما هم کلام شده ای ولی هدف نهاییت اینه که به دیگران کمک کنی هرگز به چنین صحبت و ارتباط تن ندن. فیلیپ مکسی کرد و بعد سری به تایید تکان داد. تونی گفت، بذار مطمئن بشم منظورت رو درست فهمیدم. اگر به کابهت گیر بده به طرفت بیا تلسم دل بریش رو به کار بندازه، اون لبخند محشرش رو تحویلت بده میخوای بگی هیچ اثری روی تو نداره؟ صفر صفر نه نگفتم هیچ اثری نداره با شپنهافر موافقم وقتی گفته زیبایی یک نامی سرگشاده حاوی توسیه است که قلب را به التفات به کسی که آن را به همراه آورده متمایل میکنه میدونم نگاه کردم به کسی که زیبایی خارقلادهی داره شگفتنگیزه ولی چیزی که دارم میگم اینه که نظر دیگران درباره من نظرم رو درباره خودم عوض نمیکنه یا نباید بکنه. تونی گفت این نظر خیلی ماشینی و بی احساسه. چندان انسانی به نظر نمیاد. به نظر من غیر انسانی این بود که اجازه می دادم هام بر اساس نظر افراد نامعقول و کم اهمیت مثل یه چوبمبه سبک بالا و پایین بره. جولیوس به لبان فیلیپ چشم دخت. چه اعجازی در آنها بود؟ باستا به خویشتنداری آرام فیلیپ را میشد در آنها دید؟ برای عبور هر کلمه با تزلزل ناپذیری و عظمی راسق شکل میگرفتند گرفتند تا صدا و لحنی بینقص و گیرا بیافرینند. و به راحتی می شد با اشتیاق فضاینده تونی برای رنجاندن فیلیپ همراه شد. ولی از آنجا که جولیوس میدانست رفتارهای تکانه تونی ممکن است به سرعت اوج بگیرد، تصمیم گرفت دیگر وقتش است که بحث را به جهتی خوشخیمتر بکشاند. زمان رویارویی با فیلیپ نبود. این تازه چهارمین جلسه او بود. فیلیپ کمی قبل وقتی درباره بانی حرف میزدی گفتی هدفت اینه که براش مفید باشی و در اینجا به دیگران مثل ربکا یا گیل هم مشاوره دادی. می‌تونی یکم بیشتر برامون بگی که چرا این کارو کنی؟ اینطور به نظرم میاد که در اشتیاقت به مشاوره دادن چیزی فراتر از تمرین یک کار درامتزا وجود داره. دستکم اینجا برای کمک کردن به دیگران انگیزه اقتصادی نداری. همیشه سعی می کنم به خاطر بسپارم که همه ما محکومیم به یک زندگی سرشار از بدبختی های گریز زندگیی که اگر از واقعیتش خبر داشتیم، هیچ کدوممون حاضر نمی شدیم انتخابش کنیم. از این نگاه همه ما به قول شوپنهاور همتایانی رنجوریم و همگی در طول زندگی در نیاز به مدارا و دریافت عشق از همسایه هامون شریکیم بازم شوپنهاور فیلیپ من بیشتر دارم از شوپنهاور هرکی میخواد باشه میشنوم و کمتر از تو تونی آرام صحبت میکرد طوری که انگار لحن متین و موقر فیلیپ را تقلید میکند ولی تنفسش تند و سطحی بود معمولا تونی خیلی راحت با افراد رو در رو از زمانی که درمان را شروع کرده بود کمتر هفته ای را بدون درگیری خشن در میخانه این رفت آمد در خیابان محل کاری یا زمین بسکتبال بال با اینکه مرد درشتی کردی نبود در رویاروی ها نترس و بیپروا بود. به جز در یک موقعیت تضاد دقیده با یک همدم تحصیل کرده و فسی. کسی درست مانند فیلیپ. فیلیپ تمایلی برای پاسخ بتونی از خود نشان نداد. جولیوس سکوت را شکست تونی به نظر میاد سخت تو فکری چی تو فکرت میگذره؟ داشتم به حرف بانی درباره دلتنگیش برای پم فکر میکردم منم امروز خیلی دلم براش تنگ شده جولیوس تعجب نکرد تونی به سرپرستی و محافظت پم عادت کرده بود این دو نفر از اون جفت عجیب و غریب بودن یک حسداد زبان انگلیسی و یک مرد زمخت خالکوبی کرده. جولیوس روی کردی غیر مستقیم اتخاذ کرد. تونی، به نظرم برای تاسون نیست که بگی شوپنهاور هرکی میخواد باشه. تونی گفت، خب ما اینجاییم که راست بگیم. گیل گفت، حق با توی تونی، منم دقیق کردم، نمیدونم شوپنهاور کیه. استوارت گفت، منم فقط میدونم یه فیلسوف مشهور آلمانی و بدبینه توی قرن 19 هم بوده؟ آره سال 1860 تو فرانکفورت از دنیا رفت و در مورد بدبینیش ترجیح میدم اونو واقع بینی ببینم و تونی شاید راست میگی که من زیادی از شوپنهاور حرف میزنم. ولی برای این کارم دلیل دارم به نظر می تونی از اینکه مورد خطاب مستقیم فیلیپ قرار گرفته جا خورده است گرچه فیلیپ هنوز ارتباط چشمی برقرار نمی کرد حالا دیگر به سقف خیره نمی شد از پنجره به بیرون نگاه می کرد انگاه چیزی در باغ مزخورش کرده باشد فیلیپ ادامه داد اول اینکه شناخت شوپنهاور و شناخت منه مغز ما دو نفر مثل مغز دو قلوهای به چسبیده است دوم این که اون درماگرم بوده و کمک ارزشی به من کرده من اون رو درونی کردم البته منظورم عقایدشه. همونطوری که شاید خیلی از شماها دکتر هلسفلت یعنی جولیوس رو درونی کرده باشین. فیلیپ همراه با نگاه گذرایی که به جولیوس انداخ لبخند کمرنگی زد و این اولین سبوک سری او در گروه به شمار میاد. دلیل آخرم هم اینه که امیدوارم بعضی از نظرات و عقاید شوپنهاور برای شما هم مثل من مفید باشه. جولیوس نگاهی به ساعتش انداخت و سکوتی را که بعد از اظهار نظر فیلیپ حاکم شده بود شکست. جلسه پرباری بود از اون جلسه ها که از تموم کردنش متنفرم ولی وقتی امروزمون تموم شد تونی در حالی که بر میخواست و به سمت در میرفت زیر لب قرید پربار پس چرا من نفهمیدم